توی باطنها شنو بکنی؟ آقای مروبایی خدا هستم آقای مروبایی زالی بردست به خوچیک؟ توی چه بیزنسته هستی؟ توی چه صنعت کار من بوده ایران خود رو ایران هم داشتیم با هم داشتیم سرطان <تصال> هستنش داره؟ بند، بند، نسبت داریم؟ همکار از اینکه داریم، همکار خب یعنی بیمه توی ایران خود رو؟ نه، <زیده> ایشون غیر از خادشون آها آه، یه بیزینس دیگه پس هم در واقع توی صنعت خود رو تشیف داریم همه که در کانر جادری تو صنعت بیمه هم، باز بیمه خودرو یا نقداره بیمه مفسق خیلی خوب دوستان، پس شما تازه اومدیم؟ ما قرار شده جزید بودی سیویه، با اینوزی دوچه شکره احا خوب، میخواستم بگم دوستان با شما آشنا شدن چون میتونم استفاده کنن خلاصه از خودروهای در واقع ایرونی شده و ایرونی و همچنین از بیمه که در واقع در این بیزه اولین کاری که در این کلس میشه چیکار میکنیم با هم دیگه؟ کارت ویزیت و بله نظر رو کارت ویزیت رو دردار بکنیم بکریم از هوا های هم دیگه از بازاری که پیش رو داریم چیکار کنیم استفاده خب دوستان بقیه مباحث رو پالا ادامه بدیم ما فقط توضیح بدن درست ما در رابطه با رفتار سازمانی و بحث جذابی که شما توش خواهر نکنیم مزید معنی به هست که ما داریم مبانی رفتار سازمانی رو با همجه با دوستان مرور رو کنیم بحث فرهنگ همچنان که گفتیم گفتیم شامل چی میشه؟ عرضش عقاید، توامنگی که قابل اکتساب هستش در واقع هنر و هر چی که در واقع برای ما توی خود فرهنگ فردیم یا سازمانیم مطرحه چند نمونه فرهنگ رو اینجا برای تون رو برده. ببینید دوستان یکی خود اون فرهنگ شخصی منه که در واقع آقای دهقام فکر کنم سوالش رو مطرح کرد یه فرهنگ رو من از خانواده گرفتم، از محیط قبلی بیزینس هم گرفتم. اگه تو بازار کار می‌کردم یه فرهنگ رو باهاش آشنا هستم. اگه تو یه سازمان تولیدی دارم کار می‌کنم، یه فرهنگ خاص خودش رو داره. تو یه شرکت خدماتی فرهنگ خاص خودش رو داره. تو یه شرکت بین بین‌الملل چی داره؟ فرهنگ خاص خودش رو داره. پس برابری یه پیش‌زمینه‌های شاید داشته باشم. غیر فرهنگ خانواده‌ام، از سوابق قبلی کاری که این فرهنگ رو میارم تو مجموعه سازمان حالا توی مجموعه سازمان دوستان یه فرهنگ سازمانی درونی داریم که یه فرهنگ خاصی اون سازمان برای خودش داره برای همینم هست وقتی کسی جدید وارد سیستم سازمانی میشه باید به خودش یه فرصت آشنایی بده آروماروم آروم حرکت کنه آروماروم آروم ارتباس برقرار کنه به خاطر چی؟ به خاطر که هنوز با اون فرهنگ و فرهنگی که حاکمه و همچنه همکاراش آشنا نیست میگه فرهنگ های داریم دوستان این چنگانه رو شما دارید میبینید مثلا توی خود آقای کاشانی گفتن ما خودمون یه بینورمللی هستیم ترک و لورو و و رشتی و شمالی و تهرونی و شمرونی و انواع اخسام حالا هیتر شمال ایران جنود، قفشم، هر کنون فرهنگ های خاص خودش رو داره. غیر از اینکه تازه تو بعضی از این مناطق قومیت‌ها ها چی دارن؟ فرهنگ های خاص خودشون رو دارن. میگن اگه طرف نوخیه توی اکرمان، اگر طرف توی مشهل، بحچه مثلا سمت، بگید، بگید. کجا؟ سبزواره یه فرهنگ خاصی در خود مرکزی‌ها، مشعلیه فرهنگ خاصه خودشونو داره. به هم نزدیک هست، ولی باز هم اونجا چی میشه؟ دوباره میاد زیر مجموعه قرار میگیره. اجزاش با هم دیگه متفاوته پس میگه که این میتونه حالا بیشتر توی بحثای اخلاقی و رفتاری، توی بحثای مذهبی و توی طبقات اجتماعی این رو شما بیشتر ببینید. یعنی وقتی تو مشهد با کسی که دست طبقه خوبیه سطح ساقه بالاییه تا طبقه متوسطیه تا طبقه در واقع متفاوت باز این رفتار رو می‌بینید این فرهنگ حاکم بر اونجا رو می‌بینید همچنین تو خود تهران درسته مثلا میگه از چه منطقه میخوای کار کنی مثلا تو سنت گفتیم قنادی که آقای ربی بود گفتیم اگر از ابو به بالا بخوای شیرینی رو پخش بکنی یا برای اون تولید کنی با یه تیپ قیمت و با یه تیپ در واقع محصول مواجه هست. اگر پایین یه تیپ دیگه امکان داره که من اصلا یه تولیدی هستم که فقط الان چی تولید میکنم؟ محصولاتی که تولید میکنم باره اعضا باشه چون اینقدر زیاد شده شما می‌بینید مرغمیر به خاطر تعداد جمعیتمون زیاد داریم و چقدر هم الان دیگه الان کسی نمیاد با خودش درست کنه. همه رو چیکار میکنه؟ یه ها رو دیگه نمیاد خودش بشینه حالا دونه دونه حساشو در بیاره و خوش گردو بذاره. پس بنابراین بستگی داره که استراتژی‌های محصول و توسعه محصولی که آقای روی برای خودش چیده برای چه حالا این محصوله برای چه منطقه‌ای؟ برای کجا؟ شما اگه برای جنوب شهر شاید کمتر مشتری داشته باشید تا بیا تو منطقه مثلا عباس به بالا. یا کل منطقه شمرون و فرمانی و کامرانی و در واقع منطقه پاستوران و حال رو در نظر بگیرید مشتری های متفاوت در و تعداد توازه های متفاوت فی فرهند سازمانی بیرونی دوستان میخواد بگید قیل از اینکه ما برای هر سازمانی مثلا صنعت خود رو یه فرهند خاص خودش توی صندت خود رو چه فرهنگی تو سازمانشون برقراره؟ تو ایران خود رو عرز... چه ارزش هایی بر اونجا حاکمه؟ طوریده با کیفیت این جوزی که هاتون هست صداقت چی؟ مشتری, مداری. مشتری مداری صداقت مشتری مداری صداقت کیفیت اینها ها چیه ارزش های صنعت خود رو توی ایران خود رو هست خب توی آیچی <شته> <شته> <با> ایران دیگه حالا بلاخره جزه ارزش هاست اینکه چقدر چقدر بهش اون مجموعه عمل بکنه عمل عمل <مس Lay contract> که حتما عمل میکنه الله حتما عمل میکنه که من شما حاضرین بریم پولای آنچنانی برای این خود رو بدیم ما مجبور. مجبوریم مجبوریم مجبوریم بله بازار آزاد نیست گوش کنین آقا دارن فیدبک میدن دار. می بله صرف فیدبک بدن درستو تطبیق اونایی که حالا خلف فیدبک می دارن میدن خب توی آیتی چی فکر کنم تو صنعت آیتی که الان شما هستین چه فرهنگ حاکمه محبه. که خاص همون صنعت و مجموعه درون سازمانیه نوآوری خلاقیت هست، اوموری هست زمان سرعت سرعت انجام کار هست، کیفیت کار هست رضایتمندی مشتری مثلا رضایتمندی دوستان اینها اگه جزء ارزش هامون باشه بعد باید, باید تو هر کدوم شما را، تو هر کدوم از در واقع کار تقرط هامون اینا رو ببینید یعنی وقتی داریم فرگانت های بازار یا بیو فروش رو میذاریم صداقت قول میدیم سر قولمون باشیم اگر میگیریم می که ما دو ماهه میدیم سر دو ماه بدیم این اگر جز ارزش هامونه باید حداقل خودمون نزدیک کنیم به این وقت اگر داریم بحث مشتری رو میکنیم فرم داری. فرمایی رزدمندی داری؟ بله، می فیدبک میگیریم فیدبک می‌گیریم. چه کار میکنی؟ گزارش عملکرد داریم از نحوه رفتار در واقع کارکنانمون با مشتریانمون اگر که این جز شعره باشه، جز عرضش باشه ولی فیدبک نگیریم، فرمی نداشته باشیم فرم نظرسنجی نمیشونم کنیم هر پروژه یا ارتباطی که برقرار می‌کنیم، پس برابر این به این مبحث نزدیک. نیستی باید چکار کنیم سازمانی فرایندی رو تعریف کنه که بتونه اینها رو چکار کنه قابل اندازه گیری باشه حتماً یادتون باشه مباحث مدیریتی بحث کیفی داره ولی وقتی میخوایم ارزیابی کنیم باید حتماً چکارش بکنیم کم نیش هم بکنیم دوستان آن فرقه سازمانی بیرونی که امروزه خیلی مطرح شده یعنی توی سالهای 2000 مطرح شده اینه که آقا جان سازمان درسته که یه فرهنگ خاص خودش رو داره ولی بیرون چون تو اون قلم روی سازمان حتما تو سازمان مدیریت خوندید ما یه قلم سازمان داشیم یادتون میاد درس مدیریت سازمان رو گذنبه توریه سازمان مدیریت رو یه قلم رو سازمان داریم دیگه خود اینجا سازمان هست یه ارتباطی در اون سازمانی داره یه کمی گسترده تر توی واقع با شرک ها یا با درواقع روقبا با همکاران خودش داره یه کم تر با جامعه داره و همچنین میتونونه بگیم با محیط بیرونی اگر تو شهرستان اگر تهران کار میکنه محیطش توی درواقع پایتخته اگر نمایندگی داره مثل ایران خودرو داره درواقع در سطگوست اگر سا قادر میکنه موقع در واقع کمی گسترده‌تر هم خواهد بود و بین‌المللیه. خب میگه آقا جان این مرزه امروز خیلی مطرحه. یعنی میخواد بگه که شما اگر دارید توی تهران این بیزینس رو انجام میدی فرهنگ درونی یه جوری در ارتباط با فرهنگ بیرونی هم هست. حالا فرهنگ آدم ها و مشتکی تو پایتختم اگر دانش شوعباتی رو میگیری، توی نماینده رو میگیری، توی شهرستان، اون موقع هر کدوم از اونها فرهنگ خاص خودشون رو دارن. تو باید در درون سازمان خودت در رابطه با ارتباط با کار با مردمی که میخوای مشتریانی که توی بندرعباس هستن، چیکار کنی؟ فرهنگ اونها رو شناسایی کنی. پس بنابراین هر کدوم از این فرهنگ‌ها رو شما میگی، میبینید که در فرد یا مدیران ما یا سازمان ما باهاش درگیره. چه اون فرهنگ در وقت از image هاتونه، چه فرهنگ خاص در اون سازمانیتونه، چه فرهنگ ملیه. مثلا جمهوری اسلامی، هان ایرانی بودن، مذهب اسلام، چیز دیگه، غالب دیگه. اینها همه مال فرهنگ ملی ماست. محلی ما موقع تعریف میشه تو چی؟ توی پایتر تو هر کدوم از اون شهرستانامون. چنگانه اگر باشه که داره در واقع میگه که اون چنگانه توی اون فرهنگ ملی دوستان، طبقات اجتماعی توش چی میشن؟ تعریف شده است اگر شما توی بیزینسی هستین یه پیمانکاری رو داری ایران خودرو که داره برای شما یه قطعه‌ای رو تولید میکنه و آرامنه هستن فرهنگ خاص خودشون رو اونها دارن درسته ما داریم دیگه پیمانکاری داریم رو که توی های مذهبی هستن ما باید اون ملاحظات خاص اونها رو هم کار کنیم داشته باشیم ایام عید اونها رو حتما یادم باشه تبریک بگیم حتما ببینیم دیدنشون اگر ببینیم اون حواسمون باشه که اونها عیدهای متفاوتی هم دارن افرادی که هستن که تو سازمان شما مال اقلیت‌های مذهبی هستن تو عیدشون بهشون مرخصیه چی بدیم؟ تشویقی بدیم ها؟ باز بنابر این ما انواع اقسام فرهنگ‌هایی که یک سازمان تو سطح فرد، گروه و سازمان باش باشترینه رو داریم با هم دیگه نگاه می‌کنیم. حالا آقای تکسیرفار سوالت رو اینجا مطرحه. فرهنگ سازمان شما دو نمونه رو برامو گفتین تو صنعت و آی درست درست بفرمایید. سلام عزیزم، تو صنعت خودرو و آیتی حالا به من بگید که اینجا توی شرکت شما، توی شرکت بازرگانی هستید فرهنگ سازمانی تو چیه؟ و آیا فرهنگ سازمانی قالب شده به کارکنان یا فرهنگ افواق، مدیر که کنانی طالب شده تو فرهند سازمی؟ اشتر فرهندی که اول بده فرهندتون شامل چه چی چیزایی؟ دو نمونه شو برای ما بگیم؟ هممیت خاطر مشتری اه. چون در زمینه سادرات رو بازده که درسته؟ هممیت خاطر رو باید بشه نظرت مشتری سرعت انجام, سرعت انجام. خب الان این حاکم شده یعنی اومدن گفتم مدیل با ذرگانی تو بس صورت عمل داشته باشید، تو تو قرارداد تو توی در واقع صادر کردن به موقع قولهایی که داری میدی چیزی که داری تو قرارداد مینویسی با مشتری یعنی تمام اینا و صداقتی که داره، قولی که دارید در واقع صورت عملی که باید به خرج بدی همه اینا تو کار شما چی مستطره یا از شما انتظار میده درسته؟, درسته؟ واجبه دوست. یعنی اگر دوست. که بخواید یک کدوم از اینا را رو را رعایت نکنید کار خراب میشه کار خراب میشه کی اینا رو به شما گفتین فرهنگ و مدیرامه در واقع فرهنگ سازمانی خودش که توش حالا یه سری از مباحث ارزشی مباحث کیفی مطرح بوده رو در واقع تو هر کدوم از واحدهاش در واقع قرار داده و اون رو هایلایتش کرده تو کار غیر از اون چیکار کرده با مدیرانش هم مدام در حال مذاکره و جلسه که هست داره متذکر میشه دوسته. پس اینجا در واقع فرهنگ سازمانی حاکمه. یعنی اگر شما من هم بالا بخواد وارد سیستم کنی که بعد قول هستم میکنم شلخته هستم قولم هم ترجیح بشه با مذاکره یا نمیشم یا اگرم شدم چی میشم خارج میشم. خب بیا ببینیم که تو صنعت خودرو شد جوری فرهنگ سازمانی حاکمه. خب، تو تنه خودت ببین. راست میگی چون سازمان بر هرچی بزرگتر باشه موقع مباحثی رو که ما نرکنه خیلی خاص میشه ما چون میخوایم خاص خود شما بولیه یک کشمت واحد خودت رو بدون شما الان تو واحد منابع انسانی هستی؟ اشار هستی؟ باید. چه پستی در اونجا؟ اونجا شرکت یه شرکت زیرمجموعه ایران خود رو هستی تو واحد خودتون فرهنگی رو که سازمانی حاکم کردی که حالا احتمال از شرکت مادر هم در واقع نشأت می‌گیره اون ارزش‌ها ها بفرمایید که فرهنگ سازمان حاکم تو مجموعه شما یا فرهنگ افرادی که اونجا کار می‌کنن یا خود اون مدیره چون مدیره هم می‌تونه خودش اگر سام درست نباشه چی باشه مثل یکی از کارکنان باشه بله. مبارد. بچه درسته؟ خود ما فهمی توی حوزه من با دیگه ما یعنی نوع ارتباط به با کارکنان با یعنی نوع مزاگرت متفاوته نوع فرایندهای که بعد از دید در صورت عمل و کلیفیتتون قاملا مشکوده درسته؟ نوع ارتباطات فهمیل سازندهی بینی که بین نتایجی هست یه فرنگ خاصی که تو فقط مختصر موردی رو بزنید آهان، داره بچه رو در رابطه با چی آقای صحبت میکنه؟ داره مزن. میگه که روابط بین گروهی اونجا خیلی قبوله <تصفيق> تو حرفاش گوش کرده این کلمات روش دقت کنه گفت چی؟ جمعی که اونجا هستن محیطی که تو واحد من هست نه، واحد من خاص خودش داره میگه که یعنی چیمی که داره تو واحد به انسانی این شرکت زیرمجموعه ایران خود رو کار میکنه یک رابطه بین گروهی داره، بین در سازمانی داره که خاص مجموعه چی آقای مرمانیزاده است خیلی خوش اومدی؟ خب. ببینید که این شاخص که تو فرهنگ شما بینی میکنی، فرهنگ سازمانی، چی ها باشه باشه؟ به رو گفتیم، های غیر از اینا چیزایی دیگه هم میتونه باشه؟ ببینید، دستگی به این که، اینجوری بخواهم بهتون بگم مثل بحثای ارزش عقاید، مسئولیت های اجتماعی اینا یه حوزه بحث‌های اخلاقی شه. این سه رو شما دارید که مرتبط با کاره. بحث بحث‌های کیفیت، رضایتمندی، رفتار با مشتری، همون در واقع مشتری، مدلی رابطه برد برد با مشتریه. اینها بعد می‌گرده بعد به بحث‌های چی اگه گفتید توامندی‌ها. توامندی‌های حالا سازمانی که البته تو دل مجموعه اشه بعد شما دو دسته میبینید بیشتر از این نیست ولی تو دل این همه چی میتونید قرار بدید صداقت، شجاعت، صحت بیان، بسته به این داره که چی برای شما خیلی حیلته تو مجموعه خودتون اینجا میرید تو بحثش های ارزشی یا اخلاقی، اینجا میرید تو بحث های سازمانی و فردی که مرتبط با کاره درسته؟ سرعت عمل در ما مثلا احترام به مشتری حتی اینجا رضایت کارکنان رو گاهی مقدر اصلا یه سازمانی میگه آقا رضایت شغلی اول باید وجود داشته باشه که مشتری من رضایت داشته باشه درسته؟ آه. توی قرنوی آقای رویی کار طولیش اگر رضایت وجود نداره چه من یه آتاش خالای ها. من توی شیرین کنم وارد بکنم یه محصول پدرشو درمشیرین اصلا یه بار یکی از دوستان من یه دونه جعبه خریده بود تو یک از کلاس ها یک از دانش پذیرانمونم بود برای گفتش که یک شیشه شیشه حالا این چه جوری وارد اون کاکاوه شده بوده گفم نفهمیدیم که البته داشتیم صحبت رزن... داشتیم این که ما با هم داشتیم رواشنسه یفتی با مشتریان بود. خیلی جالبه تو میگم که اون شرکت شیرین عسل با اون وسعت و با اون بالاخره گرنش مالی کلیشون زنگ زده بود و پیگیری کرده بود و توضیح داده بود که خیلی چیز مهمی هم هست دوستان چون بحث غذاییه و بعد شیشم بوده خیلی بعد جالب بود تنها بالاخره یه روز یه پکی یه جعبه به عنوان عذخایی چون خیلی رضایت مندی مؤثر برشون مهم بوده برایشون ایشون چیکار کرده بودن آورده میدن یعنی اینجا بچه ها اگر شیر نسل یه روزی به من بگیم میگم اینجا امیدوارم نلنگه این بحث ارزشید بحث فرهنگی به نظرم مشکله چرا؟ چون فیدبک های خوبی؟ حالا البته استثنانی یه مورده اگر بیشتر بشه بعد اون واحده در واقع مش در که ما توضیح می‌کنیم که آقای کازمی اگر یه همچی اتفاقهای افتاد شاید حتی مدیر اومد باید زنگ بزنه صحبت کنه با اون خاله شده. یکی از مدیران، مدیر بازاریابی و فروش های ما بره در خونه اون فر برای اصخایی بسته به درجه اون چی داره؟ واقعه داره خان هستن و درسته؟ پس این نوع بحث های شما توی فرهنگ آقای سلطانیان یا بحث های و اعتقادیه یا بحث هایی هستش که مرتبط با کار توعظه توامندی ها ولی تو دل این دو تا دسته شما میتونید این مسئله رو با توجه به خاص سازمان خودتون چیکار کنید مطرح به خوب دارید خب، بریم به میگیم اخلاق، مسئولیت اجتماعی منظور چیه؟ آقای ابراهیمی، منظور ما بحثای اخلاقی یعنی چی؟ پایمندی به یه سری اصول که هر کسی برای خودش تا یه حدی تیتهی رو قرار داده و اون درمون تیته رو ببینیم که درسته. ما در واقع میگیم که علم اخلاق یه سری استاندارت هاست، یه سری قوانینیه که آقای ابراهی میدانیم که هر فردی برای خودش با توجه به اون تربیت خانوادگی، با توجه به اون مذهبی که داره، فرهنگ ملی که داره، برای خودش قائل هست. ولی من نیست یعنی کسی نمیاد شما را چکار کنه زیر سوال ببره همون چیزهایی که الان با هم در موردش معضلات اجتماعی که تو سازمانم دیدیم و گفتیم کسی نیستش که بیاد اینا رو زیر سوال ببره و شما هم فقط میتونید ارزیابی کنید قضاوت نباید بکنید بحث‌های اخلاقی بحثاییه که هر فرد برای خودش با توجه به بینشش، نگرشش و درکش از محیط قائل هست و این چیزیه که برای خودش قانون می‌ذاره درسته؟ همون چیزایی که من بر خودم قانون گذاشتم به شما میگی که سخت میگم نه چرا چون من با شخصیتم با اعتقاداتم با تربیت خانمیم همین چی مچه پس بنابراین علم اخلاق یعنی اگه شما به من بفرمایید آقای تفکیل من آقای من اخلاقی هستم من یه تعریف کن آقای مارو باید که ما بسیار روابطمون بین سازمانیمون خوبه توی بخش مرموزم یا بگو چی رزالت شغلی اونجا وجود داره ارتباطات بین شما و مجموعه خود رو خوبه چی؟ بعد شاخصات رو بدید، میارات رو تعریف کنی. چون اینا خیلی کلی‌گوییه. برای ما گاهی وقتی که می‌خوایم بگیم یه نفر فرد آدمه با اخلاقیه باید توضیح بدیم. ما چی رو اخلاقی می‌بینیم؟ چون اون چیزی که از نظر من اخلاقی از نظرشون بی اخلاقیه. درسته؟ برای همین وقتی داریم مصاحبه میکنیم برای استخدام باید حواسمون باشه یادتون باشه توی استخدام آقای کازمی بحثای تعهد، بحثای اخلاق و حرفی خیلی سخته شما یکی باید سر سوالا ها آزمون سنجش بکنید ولی کار سختیه باید در طی مسیر و کار کردن آدمها رو به اینجوری نیست که شما به راحتی بتونید اینها رو چکار کاری کمیش کم کنید و ارزیابی کنید. ولی حتما بعد سوال بکنید. درسته؟ خب، مسئولیت اجتماعی. دوستان مسئولیت اجتماعی که امروز مطرح میشه، دو تئوری داره که اینجا جفتش رو برای شما مطرح کردیم. یعنی چی؟ آقای مسئولیت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که در اونیکه دوست ایرا رو ایران یا مجموعه شرکت شما چه مسئولیت اجتماعی برخوش تعریف کرده؟ البته همه مویدت exists می‌تونه باشه. آها، آه همه مویدت بله. یکی از بحث‌ها داغ. خب. نگهداری، سیانت از منابع طبیعی من می‌نیسم منابع ملی دیگه حالا کلی می‌نیمسه درسته؟ مسئولیت اجتماعی دوستان ما توی سازمان الان داریم مطرح می‌کنیم ولی دوستمون هم درست کنم دوست ما مسئولیت اجما... اجتماعی سازمان نسبت به جامعه داره مطرح می‌کنه. میگه دو تا تئوری وجود داره دو تا تئوری هست یا این در رابطه با راندمانی هست که میگه چی؟ میگه مسئولیت اجتماعی شما مدیر توی سازمان نصف سخمدار است. چقدر جربه رزت اونها رو بکنی؟ این مسئولیت. هم می‌خواستم همینا مخصوصا این دو تا تئوری رو بگم. دوستان وقتی بحث مسئولیت اجتماعی میشه فکر نکنید فقط نسبت به جامعه است. اول تو درون خود سازمانه و تو دل خود سازمان تعریفش بکنی. برای این چی؟ برای اینکه بدونیم این هم مثل همون اخلاق خاص، مثل قسم نامه منشور است. مسئولیت اجتماعی ما خیلی وقت ما وقتی صحبت میکنیم با کارفرما میگه ببین من در قبال سهامدارم یا زینافم مسئولم. این داره الان چی رو صحبت میکنه؟ رندمانی رو. مسئولیت اجتماعی که در واقع مدی نسبت یا مدیران میانی یا مدیران ارشد نسبت به سهامدارای زینف های اون مجموعه دارن. مشکوط منه نگاه کردین. پیش من بودی؟ آها فکر کردم پیشم نیست. تعریف میدادم با سازمان <تصفيق> دومی منشهور چیه دوستان طوریک که مطرح میشه مال سهام میگه آقا جا این مدیره وقتی که میخواد تصمیم بگیره برای همه زیف باشه فقط تو ایران خودرو که یکی سازمان گسترریشه تص مسئولیت تخوریم نسبت به مشتوم نسبت تعمین کننده باپیمان با با. کارام بود با. ونو گی برامو که اتولیت میکنه. درسته بعضی از بینو خود رو یه سرکار دوتای بینو هم داره. مثلا با شرکتای بینو کار میکنه. درسته آقای مروری زاده هستم با مثلا رنو. آره. پس بنابراین بر چی کار میکنه؟ میگه با تأمین کنندگانه، با زینف آم، با مشتریانم، با کارکنانم داره یه ذره بستش میده. یعنی آنچه که به نظرم میاد تو این کلاس آقای رویی ارزدم خسته نشت و صاف بشی، پشت کمره درد میگیره چی؟ چیکار کار کنی؟ باید یه ذره کلی ببینید فقط داره. اگر آقای کازمی فقط صحامدارها رو ببینی، یعنی فقط به سود فکر یه جایی رفای کارکنان دیگر رو دفته، خوب با کارگرات دیگر رو دفته، باید عرضیابی عمل کرد داشته باشی، ببینن چند تا قردادوستی؟ توی قراردادا چقدر رو خوب انجام دادی؟ چقدر مبلغ قرارداد رو درست تونستی؟ یعنی از این تا شیرسود من هم افزایش پیدار کرده یا یه جای رفتی میز مذاکره را چکار کردی؟ اون کردی آه اونا نشتی داره تو بین بازارا یا کل رویز حاضر یعنی پول روی میز رو ترک کرد اونجا زمانی که بدترینه این یکی از نبایت های مذاکره است میگن هیچ وقت میز مذاکره رو تعظیم نکنت باید همیشه بگی رابطه برد بود بر. این پول هم کاشنی با هم بود <تصفح> بالاخره این قبا هم گپ بزنن که به یه چی پول رو میز نمونه شما از این ور بر من خب بالاخره ندید می پول رو پس بعد حواسمون باشه خب <تصفح> حالا خب، دوست عزیز شما خود تو معرفی کن خانم بنده پر بخصاده هستم آها، آه خانم پر که گفته قرار بیاد خب، خیلی خوش اومدیم تو چه صحنتی هستی عزیزم؟ ببخشم، تو چه صحنتی کار میکنیم؟ ما تو صحنت شوینده شرکت فیروز هستیم که بحث مسئولیت اجتماعی فیروزی، شامپو بچه ها و اینا، خیلی خواهدام دیگه آلاورا و شامپو بدمه خب چند همی بود؟ نه همی و دو, دو. دو به بحش سید یازده همی هم و هم. چند سال سال کار داریم؟ بنده چهار سال چهار سال موفق خب، بفهمید آقای سلطانی. این دوتا تئوری که گفتی هر دوتا شما نظرم می‌کنید کی تعریف کرد؟ نه، نه، اینجا. نه. یکی کی تعریف اینجا میگه دقیقاً توی راندمونی میگه فقط جلب رضایت سخن داره. دوبامیش فقط. دومیش داریم یه یک تامیکنای مشتری و کارکنان. زینف. خب سهام داره که هست. چون زینف نه. کلّ میگه کل زینف آن کارکنان سخن دارانه. هنوم کننده ها هم هستن و حالا هر کسی که تو سرنات شما هست ولی تو راندمانی فقط میگه ببین من بالا دستیه اون که پول داده سرناتی گذاره برای مهمه اگران یادتون باشه در زمانی که های مدیریت مطرح شد تیلوری فکر اگه بگو که هنوزم خیلی از دانش ظزیرای من قشنگ یادم گفتم اصلا الان مدیریت ما تیلوری میگه وجود داره هم چنین نه بله هست ها اونا فقط دراز ده اصلا برشون مهم نیست دست دفتر دست خوب وقت گیره خدا بی معجون میتون کاری بود برخورد میکنم اصلا برای مهم نیستی. فکر نیست کدوم یکی از دانشگاه ها رو شما می‌بینید که اساتیدش خیلی راضیه. هست؟ کارکنانشون خیلی راضیه. تهران، دانشگاه سنتی شریف، من که بزرگاه شو بگم من که دانشگاه تهرانی هم می دونم چه اوضاعیه تازه خدا رو شد تو سالهای اخیر، تو دهه از 80 و خیلی بهتر شده همون زحمه اساتید ولی باز هم ارزا کننده نیست، یا نیرو, نیرو دارن از فشار کار می‌می واقعا عشق دارن وگرنه شما فکر کنید در روز 100 نفر میبوشون سلام علیکم خسی میشه جواب هر از این جلی بسونا حالا یکی چه میدونم 18 یکی 20 یکی 40 سالشه یکی, یکی نمیدونم یعنی واقعا پاسخوریت به اینا کار آسونی نیست استاد به استادی دکترو داره درس دار ساعتی 3 تا تا بعد فون ما خراب شده بود پنج شنبه با اجازت ساعت 7 من بیدار شدم چون هشتونیم قرار بود آقای تشریف بیاره تا سر یازم رو ببطور کشید تا بعد بس مجموع رو عوض کن چقدر گرفته باشه؟ ساعتی ساعتی ده حضرت. دستشان پسر 26 و شش خلافه خو میخوام بگم، چه چونهش حرفه فنی کار فوق دیپلم داشت فوق دیپلم بار بهش گفتم چه ادامه تحصیل میدی پسر به این معدبی چند ساله میگیدمش خوش تیپی خانواده خوب چرا ادامه تحصیل داد خوشش فوقیاتش بزرگا رو بیشتر ترجیح میده حقه تلف میشه یعنی چی فرهنگ قبلی قبل از انقلاب آقای کازینیتولی بود فرهنگی بدیم کار تحصیلات، استاد، مهندس ولی الان میدونی یه لحظی با مذهی هم به کار گفتش قدیم می که تحصیلاتت چی؟ الان میگن چی داری؟ لفظ خودش خشن و میگه این چیه؟ خونه من هم که من دختر به شما میدم؟ نه! پس بنا بر این ما میبینیم که شبیه می کنیم میزیم پیدا می به این درست درست نه نباشیم دختری پیدا می که با شما باشه. خب دوستم پس ما اومدیم بحث در واقع از بحث خود تعریف رفتار سازمانی و بحث فرهنگ بحث این که در واقع چقدر علمه های مختلف روی بحث رفتار سازمانی تحصیل گذار هستن و همچنین سطح سازمان، سطح سطح فرد رو به تفصیل بررسی کردیم در رابطه با اخلاق و مسئولیت اجتماعی که بحث های داغ سال تا دو رو هم چکار کردیم؟ اینجا مطرح کردیم یادتون باشه این دو تا بحث توی بحث های بین الملد خیلی مطرحه یعنی اعاده بیزینس های مون با کشورهای دیگه یا کار بازرگانی مون کاری اینا بحثایی که باید اهمیت اهمیتی اخلاق کاری که برای شما مفهمشه برای فنجا یه چیز دیگه است برای ژاپنیه چیز دیگه است برای گفتم اون هنگونگیه که اومده تو استرالیا کار کنه بحث ارزشیش یه چیز دیگه شاخ در آورده بود وای یعنی چی یعنی ما چیز بازنشسته شما میشه پول ناروشو ما بدم یعنی میده واسه خیلی چی بود ما على بود نگاه کنید مبانی رفتار رفاه دوستان سی تا مبحث اصلی داریم که هر کدوم از اینا رو با هم یه تعریف کلی میکنیم بعد می‌ریم مهمترین قسمتش هم با هم یه مرور میکنیم من عذرخواهی می‌کنم دوستانی که این تایم اومدن من واقعا نمیتونم خیلی دردم چون وقت محدودیم من عذرخواهی می‌کنم ولی پاورپوینت‌ها در اختیارشون قرار می‌گیره سؤال داشتید در خدمتون هستم ایمیل هم بهتون می‌دم خب وقتی که خیلی از صبح در مورد نگرش، درگ، تیپ شخصیت صحبت کردیم نگرش چیه می رو نسبت چی؟ نسبت به سازمانت، به مجموعه کار دقاقه بیزینسی که توی بازاربی اینترنتی داریم خیلی نسبت پس به افرادی که دارن با تو کار میکنن در واقع دنبال این هستی که یه ارزیابی از اون فرد داشته باشی درسته؟ که اون فرده بتونه اون ارزش ها رو رعایت بکنه درسته؟ شاید هم خودت در واقع نسبت به خود نگارشی میگه بعد تو یه محیطی میخوام کار بکنم که در واقع تو اون چارچوب های اصلی سازمانه قرار بگیره سرعت عمل داشته باشه رفتار خوبی با مشتری داشته باشه درسته دیگه چی این کارو یه بکنیم من خودم هنوز از این نگران چیزی در ن... درنگردنم یعنی درش... هنوز نمیدونم در در که نگرانش چ... کار باید بکنه یعنی چی تو این نگرانش چه اتفاق واقع شما یه بینش و یه نگرانی در زندگیتون دارید که با اون مسائل رو میبینید مسائل مثل چی مثل رابطه با افراد با خانواده با فامیلتون با همکاراتون با رقابتاتون درست یا بهش میگم اون بینش و نگرانی که شما دارید که اینجا نوشته یه ارزیابی شما دارید که حالا تو اون طیفه نمیگی مطلوبه یا نمطلوبه نسبت به شه یا افراد میگی ایران خودرو یا ماشونشون خوبه من اصلا یه نگرشی دارم من یه زمانی نسبت به سایپایی ها. اصلا ایران خود رویه خوش هم نمیدن. نه خود ایران خود رویه ببین یه نگرش کلی حالا بعد دارتون میگم از چی اصلا فکر میکردم که سایپا تولیداتش مردمی تره پسی که به این میداد یه نگرشی داشتم پس اگه میخوام کسی رو تشویق کنم ماشین های سایپ رو بشتم. خودم میخواستم ماشینی بخرم ماشین سایپ این در واقع این نگشه این بینشه رفتار من رو چیکار میکنه دوستان داره توجیه میکنه. وقتی میگیم ادراک یعنی درک یعنی درک که شما از محیط، هیت از فضای موسسه از فضای تو در کلاس داریم درسته شما ننگشی به اساتید داریم. یه نگهره میگه تا اون مدت که آقای افرایمی خنگیهایی معلی دار میکنه داره یه چیزایی میگه یه آلارمایی به من میده با صورتش ببینید شما یه نگهره میگه توی ترم اول یه شما رو به یه چی میرسونه؟ یه در واقع یه اساسیدی که اومدم به نظر من اساتید بسیار حوامندی بودن در حوزه‌ای که درس می‌دادن یه ارزیابی از پرد دارید ولی وقتی می‌خواید بیان کلاً مورد مؤسسه صحبت بکنید ماسسه عصر شبکه نمیان فقط استادش رو ببینید، پذیرایش رو می‌بینید، بازاریابیش رو می‌بینید، رفتار مدیریت رو به خودتون می‌بینید، یعنی همون که در محیط عوامل مختلفی که شامل چی میشه این خروجی میشه که در واقع شما دارید کلاس میاد. یعنی در شما از کلاً تو ذهنتون برداشتیه اون ارزیابی که شما چی دارید از کل مجموعه اصل شبکه دارید درست شد و یه نکته دیگه شخصیتی که شخصیت همینی که ما داریم یه درون ما یه فرد پویایی مثل من که کلی فیدبک‌های خوبی داد نمید به من یه فرد پویایی وجود داره در درون شخصیت من در درون شما یه کودکی وجود داره هم؟ یا نمیدونم اگه پیره نمیدونم حالا چیه؟ درون شما را یه سری مباحث ذهنی، روانی و فیزیکی شاملش میشه که شما از این شخصیت را چیکار میکنه؟ رفتار میکنه؟ فکر میکنه؟ میکنی، فکر میکنید، حرف میزنید، میشی یا یا گوش می به صورت فعال یا سرسلید یا صحبت میکنید با همیگه درسته؟ پس بنابراین ما در واقع این فرد بعد از روی مباحث سطحیمون گفتیم 100 تا سطح وجود داره سطح فرد، گروه و سازمان این فرده دوستان سه تا مبحث مهم داره که اینکه نگرشش چیه، شخصیتش چیه و چه درکی داره اوکی حالا اینکه شما چه تیپ شخصیتی برید چه کار بکنیم یه نگاهی بکنیم به اون فرم که بهتون دادم چون چشاتون داره قیلی میره خوابتون میاد بعده خواهش می‌کنم دوست دارید تست ها رو دوست در تست بزنیم؟, شرا شرا تست بزنیم؟ بله، بله خب، همه داریم؟ شما داریم؟ اون اواش کوییم میشه یه دون از رو بدیم دوستان که اینو اینو که بدیم برای شما اگه تاکسی کنید سه تا ممنونتون بشه دوستان از دسته. چی از دس برنامه هست نه, نه نه نه از نه برنامه شما طلاستون کوچیک هست که هر کجاست فقط بدونید که ما آقای این تئوری تئوریه که شخصیت انسان یکی از که شخصیت افراد میتونه درونگرا یا برونگرا باشه ولی تو اون طیفه که گفتم یعنی شما یا سمت درونگرا هستین یا برونگرا الان نمیخوام توضیح بدم شما اینو بزنید بعد موقع با همینده صحبت, صحبت. صحبت. می کنیم میشه؟ بله نهلو پنجاتاشو جوابه بریم بله سریع ببخشید میخواییم بریم؟ بریم مشکلی لیستا میخوایم کشید ببریم؟ ببریم فقط من دودم از این بکنم خود کیا؟ کی؟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 به بخش برادر مال شمالی هم شما بزنید. اصلا اصلا از کدوم فرم علامت چی دارمودون میاد. نه این به باها دو سال سوال هر تستی که بهتون میدم که اگر تو فرصت بیشتر دو تام نخواین داشت هر سوالی که میخونید شما بیشتر به شما نزدیکه. امکان داره تو اون دو تا آیتم الف و بیش یا ای بی شما بگید که هیچ کدومش خیلی شما به کدوم نزدیکه؟ خودتون در مورد خودتون بگید. کاری به عرضه دیگران نداری. الان برایشون میاره، ببخشید، برادر در نبید کلاس از ده دراز در مر چرا من این کار احمقانه ناری کردم من خودم براشتم بیرمینه میتونستم، مال خودم براشتم بیرمینه؟ بله بزنیم بله بله شروع کنیم فقط دو تا دوست یه در با میشه میشه بذارید فقط همه بزنیم کلیت میشه ماست کلیت بزنیم بزنیم بیا خودمون بزنیم بیا. گرم گرم کنیم بزنید گرم گرم ببینید شما لطف بفرمایید که چیز کنید تست کنکور نیستا ببینید نشورا اصلا مهم نیست چون کلیدی نیستش که دوستان بی عزیزین این این شما با خودتون رو راست باشید بهتر خودتون رو بشناسید آدم موفق تری حالا کلیدش لو رفت. می‌خوام همه مثل هم A بزنید، B بزنید. مشویتان. میتونم. همه کار رو بکنیم فایده‌ای به حال من شما نداره توی ارزوبه خودماست. یعنی کی ببینید چقدر به این دو تیپ, تیپ شخصیت نزدیکی، به کدومش جونم؟ نه نه نه اونجا اول بعد بزنید. شما اول اینو بزنید بعداً. کلیدش اصلا نباید به شما میدادن. من اصولا وقتی که رو میگه این رو تقسیل میگن به دانشگوها ندید خودم سر کلاس میدن خدایی راهی نیست یه سوال این ای و مثلا روی هدفی شما فقط بلد. دو تو گذینی بگذاشین بله حالا مثلا من هم مسابقه دادن و هم رو دوست دارم هم رمان رو به یه اندازه نه این جبیشو... نه اون نیست بعد به یکیش تمایل‌تون بیشتر, بیشتر باشه بیشتر باشه آره خیلی‌ها شادام دو تاشو می‌خواد نه دیگه آه. شما برای همین گفتم به اونی که بیشتر حتی یه اپسیلون بیشتری اون بیشتره رو علامت همه سوالات رو پاسخ بدید دوستان این آزمون توسط من هرچی امروز به شما گفتم غیر از اونجایی که تجربه خودم تعریف کردم همش مال چی بود تاورسیان های مدیریت میشه چی رو من از خودم به شما نمیگم چون ما بحث علمی داریم با هم میکنیم درسته؟ این آقای میشل گوکلن که یک از های مدیریته در مورد شخصیت نظر خودش رو داده ثبت کرده آدم در واقع قابل اعتمادیه و این آزمون ها هم یک کار حرفه‌ایه. آقای دکتر مدرمی از دانش رو تحران نرو ترجمه کرده و یک کمی بومی کرده. چون اینا آزمون یعنی تستای رحمان شناسی، تستایی که مدیریتی هست آقای کاثمی شما باید متخصص و حرفی این کار باشید برای همین هم هست که می فروشن. یعنی به این راحتی شما مثلا من یه دونه تستی رو میخواستم در رابطه با تفکر استقرایی باید از یه شرکتی به صورت دولار که این به ایرانم بفنه میفروشم یکی از دوستانمون از دوبهی برای ما رفت کرد اونجا توی شرکتی کاری هم از طرف اونجا برای ما خریداری کرد یه دونه تست آزمونی که کمک میکرد که من ببینم شما چقدر تفکر استقرایی دارید. برای افتران سمیتر میخواستم اینا کار حفظهیه برای همین تستا به هر کدوم که من توی در واقع کلاس خودم به شما میدم چون تستای کچیکتره هم حصولی زمینه ها یا توی سایت روانشناسی. ولی اینا چیزه ارزشمندیه برای خودتون حفظش بکنید هر از گاهی هم از شخصیتون نه ولی برقیه رو میتونید که هر شش ماه یک بار دیگه بزنید چون انسان در حال تغییر هست اصمان همه بودم نه دیگه نه همه همه همه شما چی برای افتاد خب، تو این تست جالبه بله اینه که من میبینم یه زمانی، تو سن مثلا بیس تا سالگی که اون علاقه داشتم، الان توی این الان بگید الان رو بگید، رو چون الان شما الان تغییر یافته ای شده. یعنی، البته شخصیتتون زیر و رو نمیشه ها ولی شما با, با, با توجه به تجاربتون و با توجه به عقل حاضرتون که عقل یافته ای هست چی میشه؟ به همچنین دانشی که کسب کردید انسان خودتون رو چکان کنن، تعدیل میدنید شما چون نمیزنید من بزن. نه بره بره. زیبایی من شد من <تصفيق> شما از شوخی که داره. شوخی میکنم. من اینا رو میگم من, من فکر کردم که قبلا فوتبال بازی میکردم الان ولی شطرنج بازی میکنم. گفتم <تصفح> الان در حال حاضر چی کار میکنی؟ بزنید بعد منتقل میکنی تو صفحه آخر. ما یه خب این شما بود نه اون کیلیده خب نبرای شما هم علا بیزوش در شما برای این انجام بدید اون قسمت صحیحشه حالا اگر اونم انجام دادید اشکالی نداره خب مهم نیست فقط به شرطی که واقعا اینش رو نگاه نکن نیست. نعمه نیست. نعمه نه نگاه کنم. خب اشکال مهم نه نگاه میکرده نه اون بخاطر دید میخوام بهتون این چیز نده بهتون داوری نده به تو پیش داوری اصلا نکن مهم نیست آقای ربی شیطونی نکن شیطونی نکن آقای ربی جردن نیمه ها آقای ربی. شیطونی. نه شیطونی نیست قیافهش ولی شبه نیست نه دلیلی که خوش مش رو میخنده دلش میگه شیرینی میخوره هر وقت قندیش چی بخوری؟ دوازده شب موچی کافه من قهوه میخوره چی؟ دوازده شب قهوه میخوره چی سرها یه یه بستنی یه بستنی شکلاتی شاده شیرینی خوردن عزیزان من مگه هر دفعه هر شب موقع شادشنگول چمیشش شاد یه کارش شادتر میشه من خیلی وقتا اینجوریام مثلا میخوام که مطالعه کنم اصلا انحوس ندارم هفته تنبلی میام میرم یه دونه بهسنی میخورم چی میشم سرحال میام شارژ میشم میرم مطالعه میکنم درست یا یه روزی هستش که یه اتفاق بعدی میفته یه خبر بعدی بهمون میگم ببینیم حالمون عوض میشه حالمون دگرگوش خود اون رو سمی بدیم شیرینی جان بستنی میتونه روحی ما رو چکا کنه؟ تعقیل ده. تازه یه چیزی هم بهت بگم سمیرا خانم ایتالیا یا نهار بستنی میخورد شما تو بستنی تو باون نهار بخورد دیگه چیزی دیگه اگه اگر نگرانه چاخ شده اگر مثلا من نگرانه چاخ شده که ایچون بید من اصلا هیچوقت اهل رژیم نبودم و نخواهم بود چون همه نعمتان رو خود رو بزرشون و استفاده کنم یکی جب خود و خورای کنم ساد میاد هنها چیزی که جای شکولاتا میگیره شکلات بیششهره میس ها ها میرس من هم عاشق شکولاتم این رو به شما بدم؟ چی رو؟ لیسته خالر دسته همه نمونده خانوه فراختادونه فراختادونه تموم شد روی اون فرید برید بگید که عدداتون چنده به من امیر حسین اینجا فاملی جون چیگه؟ یادم میره چرا؟ <تصفيق> چی یادم به سردهایی دارم امیر دیگه رفت و ذهنم اسمت جام؟ هم <تصفيق> <تصفيق> خانمه زنوزی عزیزم <خانمه فرخزادی زاده زاده هر دادم دوستان اسامیشون نوشت میرسه بله، مجرم. من همه را حفظم، لازم بله بله، بله، مرسی جان شیبانی، چرا؟ که شبیه خودمی پیرزنی هم بد دردیه ها <تصفيق> خب پر که تموم شد عدده ها شو کنم بکنم شما اینجای میگیم، ما دیگه سینین نامید میشیم نه با عاشقی می میکنم، من اینها رو میگم مزاق میکنم گفتن که به شما من اصلا مثل بنجامین میمونم هر روز جبانتر سایران که ما کنم بعدش هم یه نجاد کرمونی دارم میگن چی؟ قالی کرمون قالی کرمون اون قدیل کاشینه <تص> اون بالیه کاشونه <تضرق> تدریز و کاشان و بده بمه هزیم همه شما خوب دست شما درست همه شما همه جا سرای من و سرای ایران همه چیزش مال من هست خوب خوب یه برگی یه سفید خودم داشتم چرا اون رو بهتون ندادم این رو نمیخواستیم با یزی هستیم یا همینجور علکی آقای رضایی یزیول اصل اصل هستیم؟ بح بح سر بله یزد خیلی خراب شد. سار شده خیلی دلم سوخت امسال سر رفتم خیلی متاسف شدم یادتون کام چک چک از نظر آدمای اصیل دیله اونجا نمیبینیم اصیل یزدی کم میبینید دوستان سالم رفتن خارج از کشور بله یزد یزدی از فقط میرم أشهد چی گفته فقط اونجا گفته گفته اصلاً من یزدی خودشو میگفت ایران نیستن اونا اسرائیلین تازه اونا بسید بعضی چیزاش پستگیم شرایط داره مثلا اینکه نوشته در دوره هم جمع شدن را سنگ می بیشتر حرف بزن یا توجه دیگر را جمع جمع کنیم جمع تو... توی جمعی میری نه نه شخصیت هم که... من مردادی هم اصولاً چو توی... توی منظرم هر جا برم مجلس گرم کنم هر جا برم خوب صحبت کنم آروم نمیتونم بشم شخصیتتونه یعنی که تو هر جمع بشی توجه همه رو به خودتون جلب نؤ پوشش نؤ بافتمانت. خب من شخصیت‌ها هم اینجوریه که اصلاً مسنجم ببینم جمع چجوریه. نه نه بیشتر چجوری بیشتر از نظر من بخوام الان بگم تو تو این طیف نزدیک‌تر به آدم دروگرا هستی تا بروگرا. <تصفح> <اکه شما> اونجا <تصفح> بیشتر. بیشتر بیشتر چی طالب شد؟ من اگه تو به معنی ببین من تو یه جمعی میرم دیوار یه کلامام باهات ولی چی؟ ولی شخصیتا چجوریام؟ یعنی همیشه یا بیشتر اوقات به چه سمتی میرم؟ اون رو بعد زدم. چون بس... الان این درونگرای من بیشتر اوقات الانم نمیدونستم. زدم بعد دیدم که درونگرم بیشتر شده ولی من همیشه می فکر که مثلا درونگرای بودن خجالتی بیم مثلا. لا چرا میرم باهات صحبت میکنی؟ اتفاقا چه بره ادفان تستا به خودتون. چون گاهی ما شنختمون نست به خودمون کم. م? بعد خیلی وقتا یک کاری داریم انجام بگیم که متناسب شغلمون نست یا شغله رو بعد عوض کنیم یا خواهی اونو به اون تیپ شخصیت نزدیب کنیم آقای ربینی چی فهمیدی؟ شما دیه شما بلند بله؟ دیه دیه نه بله دیه دیه که دیه من نمی شناسم. اون سایتی که می که تست تستاقر داشته نه من نمی ش ما سایت شو نه نه نش نش چی چی مییش امام گوران گرا که نه نه نه یا نفوذ کن خود مختاری یا تستشو برام بیارین آسا توی اینترنت بزنید این مونیتی دیسک، دیسکی که کامپیوتری، یعنی دیس میاد. نه، نه،, نه نمیدونستم. شاید به این تستی که شما میگین متداول روانشناسا باشه. روانشناسی. ها این چیزایی که من به شما میگم تو بحثای تئوری مدیریت معطوف استاد چیز اشکال نداره، خیلی هم خوبه. اون هم اه. به شما کن. امکان داره اون اه ویژگی‌های آها، بزن بتونن. بعض از تستا ویژگی‌های های شخصیتی رو میگه اگر اونی باشه کردن سمیره جان گفت گفتش که به شما یه نفوز پذیریتون یا نفوز گذاشتن نفوز نفوذ نفوزگرده نفوذ کردن، نفوزگرد. افراد بله. این, این, این یه مهارت یه ویژگیه دیگه ده. چی مثلا؟ این که مثلا قدرت دامیننس یعنی بتونید روی کسی نفوز کنیم. نه ما تو قایز سازیم. خود بخص قدرت رو. قدرت. یعنی که کی چیز بکنیم. مثل یه رحبر به روش مسلک میشه. از پس تسلک برای میگه. درست درست این این داره ویژگی های شما رو میسهد. میخواد می ببینید که اصلا شما مهارت نفوذ کردن رو دارید <تصفيق> چقدر تصویر میتونی بذاری. این برای چی خوبه برای خوبه که اگر مثلا من آدمیم که مدام مذاکره میکنم بیزینس هم جوری هم بیزین که همششه باید مهارت های متقاد سازی رو بهبود بدم نفوذ گذاشتم رو بهبود بدم اگه کمه چی کار کنم برم تکنیک ها وجودت بگیرم خودم رو تقییت کنم. این ویژگی های شخصی برای همین هم چونقدر تو روها استا خیلی کندین سری چطو نکردین یادت هستا سری باشی سری سری باشین و گناز مباحثمو جا نمیمونیم مجبورم شما نگاتون دارم من این گوناگون درزی فالو یادتون باشه <تصفح> <تصفح> ببخشید. <امید. تصفح> نه اینکه شما میشین <تصفح> یا ما فرامون کنیم یه لکته ای وجوده سوک دی رو مدید یک دو اینکه پاورپوینت های من چط طمون اش در این کلاس نمیبینن مگه که پنجره خدا. از این داکتنم چیه؟ ما بالاخره شماره پیدا می‌کنیم. برید از پشت کلاس برید. ما به شماره‌مون. برید بگو ازسا. بگو ازسا. آ چه ژوری می‌نوا. بگو قرون قرارداد رو درون <تصفح> <برونگر> بون <روشن>. بزن. بون چجوری <تصفح> باشه؟ آها اینا هم اسم مشخصی. آره آره. رو علامت بزن این باستر که راحت‌تر باشی. از علام دیگه. رو بزن. عدد ما دی خودش انجام بده. نمیدی. چرا می شدش کار بروی دید. <تصفيق> برنده بودن، نقش ناجی رو, با برنده من رو زدم. نه، میگم انسان برنده به دنیا اومده. برای که همیشه برنده باشی، باید نقش حمایتی داشته باشی. نه نقش ناجی. ناجی یعنی این بگیره خود انجام ولی <سؤال> اینکه بهش توضیح بگیدی خودش انجام میده حمایتی میدونم الان رابطه دارم خواستم یه نکته رو بلد هم بتونم اوکی؟ خیلی وقتا زیر مجدور و کار کانونه ما نوید کار رو چون تنبه خود بلدیم همشت روش حتا و بوده. زمان زمانم کم بوده و خود خب اشتباه کردی ولی اشکال نداره اگر یه حالت فورس وجود داشته یه بالو کار انجا بود پنجا خود این و یاد بدیم در زمان خودش گزارشت رو به تو خطاشو کم کنه آره میدونید چرا؟ چون بیشترین زوان که میکنید به اون طرف نخواهید و بعد یادتون باشه تو مذهب ما میگن کمس و زخار و این راقریت بعدی ما اگر هستن، بیست بشن. یعنی دیگه این طنبلیاشون قطع کنه. خود نداره ولی بالاخره تو موریده کارم آدم میخوام. شما آدم تمبل... من اگه تنبر می‌خوام من استخدم. خود شما باشه. ایگلی به جای چون ال به ایگلی میره. در واقع همین ایکس و ایگلی. نه این ایکس تئوری ایکسوی گیله اینجوریه که آدما تمایلشون به ایگریه ای. یعنی هرچی من رفاهو مثلا چیزام حَمش خابیده بودن برای خودم تلویزیون نگاه می‌کردم سرمو خورده بودم هی برای خودم میوه گذاشتم میوه خوردم گف زدم خندیدم حرف زدم میزاش شرکتام ولی حَمش بیتا می‌خواستم تنبلی کنم استراحت کنم ولی هر 4 صبح امروز چیکار کردم بله شدم به کار اومدمستم چون میشام مهمونی دادم یه شام دلانگیز. برای همین بعد سی کار جا می دادم بعد کار شخصی ما می یه بار دیگه مرون می کردم مباعثی رو بخواهم به شما بگم که چه چیزه از من در نظرم نگذاره تا اینکه صبح ما و به شما برسیم جونم بسرمین آقای برمیگزدم از که من مرمونیش چی نمیشه شده ساعت خب من بخون، بخون سوالم موچند نیست تو نه شما بخون سوالم آیا دوست دارید, دارید؟ رساش مورده؟ آیا دوست دارید بفهمید دوباره؟ آیا آرزو دارید درباره حبای کتابی بنویسید یا دسته کم ذوق این کار دارید؟ میگه آیا دوست دارید تو زمینه فلسفه کتاب بنویسی یا تمایل دارید؟ زیرش چی زیرش؟ تو ایش مشخصید، اولیش نه، آراز، بکنم نه، نمیدونم سال چند؟ چه بلی؟ یا خیلی دیگه؟ نه 48 آها آها 48 داره میگه که نه کار احمقانه ایه همون کار احمقانه یا نه دیگه اون نهش گذاره کشیده شده نوع خطشه من بگم هر کسی باید سر کنه افکار خوش رو روی کاغذ بیاره ایسا شیشی از فعالیت اصلا نه با سوال کنی آقای روی ازده برای برداشت خودتو بکیم برای عشقا بگو چلو شیش خب کدوم یک از فعالیت های زیر و مهم میدونی؟ کشت ناخداگاه توسط برای چیه داستانش؟ یکی شما زمیر ناخداگاه در واقع در وقت با زمیر ها سو بایده هر انسان تا زمیر داره یکی از زمیرهای مهمش که با کائنات میتونه باید بحثای موفقیت و ذهنی میتونه تأثیر بذاره زمیر را خداگاه یا این در واقع کریستوف که خیلی به همه, به همه دنیا خدمت کرد امریکا رو کشف کرد کدومش من باشم نمیگم به زرگی درمه دنیا خدمت نه این چا من خواستم بگم با فرویت اون برام برام تر بوده بگه زمین روانشانسی هم به دنیا خدمت کرده نه من اون رو به نزاه بگم خب خب این الان تموم شد منم خب بره رو کلیتری سریم دفرمیم من بله سی و بله حالا من هم 16 و 34، های فروید مطالب خیلی ها واقع مطالب مهمی رو در رابطه با انسان مطبخ این ستا رو ستا رو سه سه تا برای یه زمیره در واقع آگاه داریم که در واقع همین زمیریه که وجود داریم که شما میتونیدش با عقلتون با ذهنتون چه بکنید و تسب اطلاعاتی که می کنید تسب محارنجاتون که با اون نووغتون کنید با آیکیویتون با اون چه زمیر ناخلگاه داریم زمیر آگاه که زمیر ناخلگاهتون زمیریه که در واقعا در درون شماست یعنی درون yeah, درون یعنی شما یک چیزها رو به استعدادها و در واقع کشف نشدن یعنی درونه که نیست کنیست کنیست یکی رو انسان که ذات خدای داره همه استعدادها، همه توافنگوان رو بود در مدیدش هستن بسته دارید که از چه قسمتش استفاده کنید و چقدر استفاده کنید که ما یک درستانی بسیار ناچیدی کنیست بر سوزنی رو به مستفاده می زمین رو توی در واقع ذهنی شما هر چیزی رو که مسئله هست برای تو مسئله سازمانی داری شب تو می که تکنوهاش این رو استفاده کردن رو در بلاقه شما بخواهیم می خواهیم بخواهییم زمان که دارین خوابتون، هناز خوابتون سنگی نیست خوب. بیداره بیدارم نیست دیدار از زمان که میرین توی ترکتون در خوابتون ببرده، دو مسئله فکر کنید و به مدتشان کوتاه یا یکی که میگراز مثلا تو یکی دو هفته یکی پاسخهای میگیرید برای حل اون مسئله که در واقع اون از طریب درونی شماست زمین رو ناخورد باشد یه ایده جلید به هر هست یعنی از در واقع اون کشت نشدنی های درونتون دارید استفاده. یک ضمیر دیگر هم داریم که اون دیگه خیلی افسانه‌ای باشه برای بحث. داریم دیگه شما بلد شما خودت شما نمیگم ما همین مجبوریم اصرار کنیم. ما اسارت. چیزایی بذارم ولی یادم بندازید بگم براتون. چون خیلی مطلب داریم که دوستان، که دوستان دیگه بفرمایید. یادم بدهست خب دیگه کیست؟ سمیرا جان گرمگراه 14 گرمگراه 36 دوستانه دیگرم شد. ببینید دوستان بحث شخصیت از اون بحث های خیلی جذابیه و اتفاقا بحث سنگینی چرا؟ چون که شما واقعیتش اینه که خیلی پیچیده‌ایم چون انسان هستیم غیر از اینکه در رابطه با این تستا که این تست خیلی کلیه شما رو میگه تو این تیپ به سمت درونگرا یا برونگرا هستی ولی چون تست خیلی معروفیه و شاخصه تو تمام ویژگی‌های شخصیتی من مخصوصا این تست رو براتون میگم این تست زیادی در شخصیت شما رو چی همین تست این تست ببینید خطا داره آزمون ها ولی اینا در موقع چون بر حسب اون وره آبه و خود بر پایه اساس خود اون تئوریا مطرح شده، ثبت شده است ببینید اینها درست و نداره این هستش که شما چقدر درست, درست با خودت جواب میدید یعنی خیلی وقتا برداشت من از خودم اشتباهه من فوتبال دوست ندارم یعنی میشیدم نگاه میکنم رذتم ازش مقبل واقعیتش که خیلی وقتا به اون فوتبالی یه چیز دیگه دوست دارم انجام بدم حالا اون اجباره نمیدونم چی پس که شما چقدر خودتون بخود بشیم و اینها رو جواب بگیم چقدر با خودتون رو راست باشیم ولی خطا داره ببینید تستای کلن روانشناسی تستای مدیدیت خطا داره و خطاش کمه اینا تستایی تستاییه که چیز شده ها، ثبت شده چیزی نیستش که برای همین هم بالاش نویشتم برای تو که بدونید این چیزایی نیستش کلکی از براجه معتبری بله، تستاییی خوش داره بله ببینید خوده اصلا میشله، خوده که ترجمه شده است آقای دکتر موقیمی یکی از دانشگاه برجسته دانشگاه تهران اینا رو بومی کرده مثلا اومده اون جایی رو که شکسپیر رو آورده سعدی و حافظ. اون رو فرق کرده بومی کنه خب چی داشتم میگفتم شخص, شخص. بله بفرمه درونگرایی 17 درونگرایی 33 بله آقای ابراهیمی رو ربی ازم بفهم بله من درمیگره‌ای 24 و بله آقای ابراهیمی؟ هنوز تمام نشده همونم خب ما فکر کردیم خیلی فرورات <تصفيق> <تصفيق> هستیم اصلا ذاشت بله, بله. بله. بله حتما صحبت می‌کنیم. مخصوصاً مخصوصا اومدم رو شخصیت بهخاطر که دیدم چش های آقای کاشن جشبلجی می رو می کمی خسته شده بود شده بیرم. خواستم, بیرم؟ خواستم که خواستم که یه کمی سرحالتون بیارم با اون تسته دوستان خواهش میکنم که صبحانه بخورید بیارد. اگر اگرا اون تعینتونی به اینجا من تراس آزادی آداس به جویی سیگار بکشید اگر من میشم میشن پنیر بخورید هر وقتم برستش رو عجیب چون انرژی میخواید. هر 45 دقیقه ما باید انتراکت داشته باشیم که نمیتونیم. واقعیتش اینه. من برای که اثر بخشش کنم شما کلاس من آزدید. خیلی اصلا کش و قوض خودتون رو بدید. فقط یاد تو باشه صاف بشینید چون در دراز نیدر ستون فقط. یه چیزی چیز تو بیتون که دوست دام چرا میگم به همه چیز خودتون به خاطر اینکه که اگر قرار باشه که من صاله ها کار بکنم و پشت میز بشینم. پشت فرمون که میشینید. عجولی نشینید. این ستون فرار هست. بس یه شده. دیسک کمر میگیرید. اول از صندلی های طبی براتون بخرید. کاملا ببینید. من همیشه ساف میشینم. الان ولی رو نگرفته. نگاه کنید. چا صندلش طبی میینه. نگاه کنید. دست منو میبینید؟ گودی کمر منو. حالا خانم هم گودی کمرشون بیشتر. همیشه باید ساف بشید. وقتی حتی با کار کنید دستت اینجوری نباید باشه باید دستتون مسلط داشت که میذرید چون وگرنم مرچاتون آسیب میبینه خب سندلی بخرید که تمام پشت شما رو میگیره من سندلی یا دفتر کارم تمام این چیزای پشت من رو میگیره و همیشه تر حتی وقتی با دوستانتون میرون رستوران میرون کافی شاب رو مبل خانهتون لم ندید خواهش میکن رو تخت لم ببید. روی. موبله، تو مبلی باشه که باز آخرش بشینید که کاملا این بره توی پشت بخاطر اینکه ساعت موبل طولانی تری بشینید الانه باز بد میشستید اون چای تای صاف تا. بخاطر, بخاطر, بخاطر اینکه این این باید پشت بعد یادتونم باشه پیرم که میشید پیر شید که نمیشید شماها ولی خب سن نشناسان میتونید همشه شق و رب استخوناتون شق و ربه راه درست راه برید چجوری درست راه بریم؟ کت واک چی؟ بله دوستم من کت واک پشن مودل را میرن نه نه میرن نه اونها کار سختیه نه درست راه رفتم اینه که شما همیشه شما همیشه اینو کتاب بذاری همه امروز بدیم چه هم که کتاب بذاریم سرشون راه بریم اگر افتاد بعد راه میبین من بد راه نمیدم من درست راه میرم تو از به من آموقدر چی جوری بشینم و چی جوری هم راه بدم خاطر نوع کاران هم که حتما بل بلد می بودم خاطر اینکه ساعتهای خیلی طولانی پشت در واقع میز میشینم یا سر پا میستم یا حتی یا تو باشه وقتی هم میستید اونجوری با هستی. اون ها تو محیط کارتون یادتون باشه صاف باستید هوا خسته شدید این قلقش دیگه یه در روی پای سنگیلی وزعتون میدید روپای چپ پای میدید پای راست ولی شورد دست به کمن، دست به چیز با نمیسه چون درست نیست ماهای که مدیر هستیم ماهای که میخوایم در واقع آدم های مطرحی باشیم که دیگران از ما الگو برداری کنن و اینکه هر از همه اینا اول از همه سالم باشی آقای کاشنی. تا ب سلامت جسم و روحتون بسیار مهمه آدم های موفق و سلامت روح هم داشته باشن این هایی که میبینید سلامت اخلاقی ندارن ببینید به هرها جای شکست خواهم خود حتی دقیقا تجاربه ترخیز و تجاربه خواهنگرم اینو شک نهارم خب افتاد 22 چی؟ جرمان گراهیم 28 خیلی ببینید دوستان من یه توضیح در عماده شخصیت بددم بعد بریم سراغه درست این شخصیت که داریم در رو صحبت میکنیم چون فرد، در سطح فرد، مبنای رفتار فرج بسیار مهم میشه اینکه شما چه تیپ آدمی هستید؟ آیا شما به سلط درونگراه هستین یا برونگرا؟ آیا شما آدم صداگری هستین یا واقعگراه هستید؟ آیا شما با عنوان ویژگی شخصیتیتون آدم پرهایهوی هستین، آدم منعتفی هستید؟ آدم سازشکاری هستین؟ اینها تو کار ملک قرار میگیره تو کار به ما کمک میکنه یا ما را اذیت میکنه درست دقیقی رویی؟ یه مدیر به نظر شما این بری بد یا این بری؟ مدیر برونگرا باید برونگراه باشه برونگراه بد باشه مدیر باید برونگراه باشه. برونگرا باشه چرا؟ من ببخشی که اوه اگردم این درمونگراه است بازه تو برونگراه رو ببینیم یه استاد بچی باشه؟ گرایشش به درون گرایی باشه. وقتی که میخواد مطالعه کنه، پژوهش کنه، باید یه کمی اون شخصیتش رو به درون گرون کنه. م? ساکت باشه، متفکر باشه، آرامش داشته باشه، ولی در درس میده، پولادوا باشه، پر انرژی باشه، های کلامش خیلی خوب باشه، مهارت‌هایش خوب باشه، خوب باشه، چون مخاطب بشنوه و باز بده، درسته؟ پس بنابر این حالا میگه برون ها چه آدمایی هستن؟ آدم‌های پر انرژی آدم های پر هیاهو پر سر صدا به محتی بیرون اهمیت میدن دوست دارم آدم‌های مطرحی باشن افرادی هستن که در واقع روادیتون خیلی بالایی دارن مهارت کرامیشون خوبه خودشون رو میتونن مطرح بکنن و داره میگه که به کارهای عملی هم بیشتر علاقه دارن تا انتزاعی چیزهایی که ملموس باشه عینی باشه با اونها بیشتر در واقع تمایلشون میره خب دوستان کسانی که کار بازاریابی می‌کنن کسانی که دارن فروش می‌کنن کسانی که مدیر هستن کسانی که کار بازرگان با شما باید توی این صنعتی که دارین میرید اگر نقشه بازرگانو پیدا دید انجام دید نقشه مودرو باید به گورم یارو این استفاده باشه تو این تلف باید اینها رو داشته باشید درسته حالا آقای رابعه عزیزم میانه است اتفاقا من فکر می‌کردم شما یک کمی به درونگرا نزدیکتری یکم چند بودی راستی من پانی نه شما به سمت درونگرا هستی خودت حسّت اینه که تو این چه به درونگرا نزدیکتر هستی خب آقای ابراهیمی و آقای ربیعی این دو نفر دو یک کمی میانه هستند یعنی اگر که این خصوصیاتی که ما الان دیدیم با هم رو نگاه کنید، هی کمی توی این آدم های متفکر، آرام، کارهای انتظاری، کاری که نیست ذهنیه بیشتر به این کار علاقمند علاقه من هستن، آدم های پجوبشگری هستن، آدم های بیشتر دوست دارن تو خودشون باشن دوست، تکلیخ خالی، چون که فکر می‌کردی که درانگراه هستی، دیگران، مثلا هر جیهن توی مهمونی، اگه ده تا یکشو میری اگر که تو خونه واژه تجربه تو اوقاتم میشه با کامپیوتر بازی کنیم ولی من این کانل رو با دوستانم صحبت کنم با اساتیدم بیشتر ارتباط برقرار کنم مطالب جدید ببینم چیه در این حال وقتی دارم کار پژوهشی میکنم میرم تو اون قالب که کنجکاو باشم تا حدی متفکر باشم ولی شخصیت هم به سمت چی هستم برونگرا هستم و خودم هم در واقع این رو دوست دارم و متناسب با کارمه حالا اگر شما به من این این برو شماهایی که سر کلاس هستید به من این برو میگفتید بیشتری بهتون توصیه میکردم که تجدید نظر بون رو شغلتون یکم کنجکاف باشید به خاطر اینکه شغل های شما طالب آدم های بونگراست چیزایی که برای من حداقل گفتید صحبت کردید درسته خودتون برداشتتون چی آقای ربی عزدم من بونگرا هستم بونگرایی مم... یعنی با این حوزه خیلی چیز نیستی البته اینجا گرایش داری او ولی داره میگه میانی <تص fixed doors> میانه هست اشکال نداره اشکال نداره این داره نشون <محبه> میده که شما روحیه کنجکاوی تفکر بیشتره میچربه تو کلاس هم همین حس میدی البته تو کلاس حسو حسو این حساب میدی آقای ابراهیمی نه حس و به نمیداد یا نویدم حسو به این حس بهم نمیداد. چیزی که برداشت خودم بوده بهتون میگم. بله آقای ربیعی هم که باز میوناست شما دو تا باز گرایشتون میوناست یعنی اینکه تو هر دو تا طیف حرکت میکنید واقعا اینجوری آقای ابراهیمی من بله بله ضمانت میکنم کنم که ولی من خودم بیشتر برونگراام شما چی من برونگراام با نه برداشت رو غیر حساس شما چی خیلی برونگراام آها آه. ай برونگراام نمیشم چون نه میخوام بگم تسته باهاتون مر تست من تست رو خودم خیلی سار پیشم زدم شاید مثلا تو تستم گرونگرایی هستش ولی من تو بعضی موقعیت ها میدونی این گرونگرایی رو ترجیح میدنم نه اونجا خودتون رو به اون سمت ببین منم وقتی دارم کار ببینید من راستش رو به شما بگم من خوام کار پجوهاشون مطالعه کردم یه لخری از این سندلی هر یه ساعت بلر من خن بتونم دروچنم. امکان نداره در یک مهمونی تو لاله من هیچ و با و ما ازش در میرم. من بیشتر دو سه مهمونی نمیتونم تحمل کنم. یه دلیلش اینه که خیلی نمیتونم یه جا بشینم. خیلی شما نمیتونید من کنترل کنید برای همین میگم شما این چیزا نترسید مدیر بازاریابی و فروشیتون میخ بشه رو صندلی. ها؟ اوکی؟ بعد نشستی آقایش صاف در بشه. صاف تمرد. استاد منم ولی خب همونطوری که خامیزانوزی میگه منم سغب می‌دم و تو بعضی از شرایط. به چی؟ به درونگرایی به درونگرائی. آره، ماها خودمون رو چرا؟ چون دانشش دارید. چون که توامندیشو دارید. خیلی آدم ها رو شما می‌بینید. مثلا من رفته بودم یه شرکتی توی صنعت آسانسور بسیارم کارآورین هستن. حتی حتو چه سطح احترام دارن توی یه چیزای فنیش. خیلی جالبه بهتون میگم. مدیر آمویل ببینید موقع شما شنونده فعالی هست اینا نشون ها. این نشون میدید حب یه موقعی هست که به سمت درانگرایی واقعاً واقعا آدم گرایشش به گرایی بیشتر بود میدونید بعد من وقتی ح... با... که یه ذره دیگه بود فهمیدم آو دقیقاً درست تشخص دارم از آرزه هایی که تو سازمانش دیدم اینو به من ثابت کرد که شخصیتاً ببین اون باید میره همون دنبال کارآفرینی نهش ولی نه کارآفرینی هم کارآفندم درونگراام کارآفرینی کارافرین من منظورم برای همین که تحقیق کنم، پژوهش کنم، توسعه محصول بدم یعنی کارهای تحقیق و توسعه کارهای پژوهشگری کسایی که پژوهشگری میخوام کنم چی باید باشن؟ درون درونگراون باشن دراند. خیلی دیگه روی بخش اونم اگر اجازه دوستان ما آقای مارس من اسماشون رو دیگه اینجا بنیمسم چون شما ها یه موقع از هم بریکس از رود یه سر تا ویژگی شخصیتی یه سر تحقیقات انجام دادن در سراسر دنیا خروجش دوست داد این بود که این شخصیت ها یه خانم یه سال است که این ویژگی ها رو داشت من براتون بودم. تمام اکسی رو با منظور براتون گذاشتم ببین. میگیم به خاطر که گایت میگویم پسکری رو چیز داره عزيز، عزيز، تو ذهنتون میمونه خیلی هم میبینم آقای کاشانی یک علا فوت کرد فوتکات هایی که تون این سایت اینترنتی ایران مطرح شده ایران که چشتی زد خدا <تصحیح> آقا همونده آقای خانم خانومان چشت نمیزن تو چشتی زد مرقن نیم خیلی خوش قیافه و زیبا و واقعا من هر یعنی رو یعنی که یعنی آقا نمیتونه هشتیات خورده ایس بشه و همینقدر زیبا و جذاب بمونه فرد یه ویژگی هایی که توی این سطح شخصیت توی دنیا تحقیق انجام دادن دیدن اکثر آدما توی این تا این پنشتا خصوصیات رو دارن در وجود خودشون یا گرایش دارن یا گرایش دارن, دارن آدم هایی باشن که آدم های پویایی باشن دیدین آدم های همیشه همی شما مکام نده تو یه جنبه بشینی اون برونگرها رو دوست نداشته باشن چون خوش چون اطلاعات زیادی داره. چون میتونن مطالب زیادی رو ب... مطرح ها. به خاطر اون خوش مشربی و خوش صحبت بودنشون می آدم ها دوست دارن که آدم هایی باشن که برونگرا هستن، آدم هایی مطرحی باشن آدم هایی که اتاف داشته باشن، افرادی باشن که آدم هایی متعهد و مسئولیت پذیر باشن چون ما ذات در وجودمون هست دوست دارم، یعنی خوبی و بدی در کنار همه در وجود ما و ما در انتخاب بکنیم، ولی آدم, ها، آدم های بی وجدان دوست دارن چی باشن؟ با وجدان، با مسئولیت، و آدم های اصازه را آتفی چرا میگن ثبات این عبه ببیند همه ما توی وجودمون هم خوشی هست هم ناخوشی هم آرام هستیم هم گاهی عصبی میشیم گاهی خشمی میشیم گاهی خیلی هم مهربان هستیم ما اگر بتونیم که آقای رعبی آقای خازمی از اینا رو مدیریت کنیم شخصیت محکم تری کاری داشت یعنی خشممون رو به جا کنترل کنیم عصبانیت رو به جا مهبانی من هم, هم در تمام چیز اسلام میگه چی داشته باشیم دوستان؟ حالو اینجو سلوه زندگیتون توی مهمونی رفتن توی دوست گرفتن توی آرش کردن توی خرید طلا توی خرید زمین تو سرمای بزاریا سرمای که میکنین در چه راستایی باشه همه چی اعتدال داشته باشیم چون کم تلت میبینیم از زندگیمونم در اینها چی میکنیم؟ لذت میبریم و در واقع دنبال این هستیم که دوستان چی بشیم؟ ما دوستان یا آدم های متفکر باشیم یا آدم های هنرمندیم که بخوایم تخیل کنیم. روسته یعنی خیلی وقتا این 5 تا را رو شما می‌بینید که همه آدما دوست دارن بهش دست. خودمتون این 5 تا دوست دارین به سمتش برید. هممون همون. پس ما هم توی این در واقع تحقیده که ثابت شدم هست هممون در واقع چی ما هم توش دخیل هستیم. یه نکته دیگرم دوستان من اینجا مطرح کردم چرا بحث شخصیت و چون تو بحث فردی خیلی بحث مهمیه اینو آوردم چون توی مدیرت منابع انسانیمونم مطرحه دوستان میگه آقا جان شغل شما باید با شخصیتتون تطبیق داشته باشه. اگه داشته باشه آقای کاظمی ما آدم موفق طبیعی هستیم. به کارمون اشتباه بیشتری می‌بازیم، پس پول بیشتری درآمدیم. چرا که می‌خوایم کاری رو دوست داریم، خوب انجام بدیم، با کیفیت خودمون رو مدام برای اون کار کارامون می‌کنیم، توسعه می‌دیم، کیفیت کارمون، پس درآمدی بیشتری هم کسب می‌کنیم. لذت و موفقیت هم به همراه خودشه، خودش. اگه امروز آقای دست و سینه نشید. آقای خیلی از این کسان مواردی که میشه خوابتیم. فر همیشه صاف بشی. خسته میشیم. من از خویم خیلی حرف زدم. دوستان چی داشتم که دام؟ کارش شروع کنم. شروع بشه. شروع بشه. آره ولی یه دیگه داشتم میگفتم حالا دیگر نداره. میگه که در واقع ما این شخصیتی میتونه تو کارمون تاثیر بذاره اگه امروز کسی رو داریم که کارش رو دوست نداره شاید یه گیرش اینه که بخاطرش با به با شخصیتش تاکید بوننده اگه یه کارمندی داریم که می‌گیم همیشه با بی‌حوصله با خطا زیاد کار می‌کنه یه ذره ببینید دقت کنید ببینید واقعا برای اون کار مناسبه چون دوستان امروز وضعیت اقتصاد جهانی متاسفانه همه دنیا رو مجبور به این کرده که گاهی به خاطر کسب پول هر, کار و هر کاری رو بچه ایرانی که می نخواهج از کشور بایی کازمی هر کاری انجام می چون دنبال اون کله ولی خیلی وقت کارشون رو دوستان یا امروز تو جامعه خودمونم همینطوره مرد به لخره نیاز به یه آبباریکه دارم این کار کاری رو انجام بدم که خیلی توستش ندارم سوار هر آجانس که میشی طرف این کار مجبورم, مجبورم. مجبورم. این باطن جمله‌ایه یکی تو زندگیم هی میشنومم. البته باشون حرف میزنم بهشون میگم که اوکی برای مخی ولی تغییر بده. ذهن تو خیلی هاشون هم ورشکسته. اشکال نداره دوباره از نو. یا علی. هیچ اشکالی نداره. فکر کن چرا فکر کردی که امروز اگر یه روزی تو تونستی یه بیزینس رو به و درآمدی داشتی امروز هم دوباره میتونی فقط کافی نام رو از خودت دور کنی. ذهن‌های منفی اخ اینا رو از خودمون چیکار کنیم؟ دور بکنیم. نگاه کنید دوستان، دوستان یه اشکال تایپی اینجا هست این بدون است. اینو اصلاح کنید قدم برای خودت. ببخشید من چون خطاش تغییر نمی‌کرد دیگه من الان تغییر بدم رو اونجا به صورت پی دی اف براتون اوردم. میگه که دوستان تلاشم شغل رو با شخصیت اومده یه سری دیگه تیپ تیپ‌های شخصیتی رو داره شما مطرح میکنه. میگه آقا مکانیکیا آدم هایی که کارهای عملی و بدنی انجام میدن، واقع گراه هستن. آدم که در واقع ریازیدان هستن، دانشمن هستن، پجوهشگر هستن، آدم هایی هستن که قاوش کرن، پجوهش افرادی مثل در واقع مشاورین، روانشناسا، مدرسین، اساتید، آدم های اجتماعی هستن. این اجتماعی هستن، دوستان این اجتماعی ها رو نگاه بکنید، شاید خیلی از شما هم اینا رو داشته باشید. بعد میاد رو صحبت می‌کنه که این آدم‌ها آدمایی هستند که میگن تو چارچوب ذهنه توی یه قالب فکری قرار می‌گیرن. این بحثی که میگن مدیرای سنتی با این فرق میکنه اشتباه نگیرید این میگه سنت‌گرا هستن. یعنی میگن آقا جا منو تو این چارچوب قرار بده من خودم دیگه میرم. ولی اینجا یادتون باشه افادایی که خیلی تو قالب باشه مثل مالکیچیا و خیلی خلاقیت شما نمی‌بینید نوآوری نمی‌بینید کارمندایتون راست قرار می‌گیرن در واقع خیلی آدمای خلاق و نتاق پذیری نیستند درسته و بعد آدم های سوداگر که بیشتر شاید شماها شاید باشن آدمایی هستند که برونگرا هستن در واقع روابط عمومی خیلی خوبی دارن بازاریابن فروش خوب انجام میدن و در واقع میتونن مدیر همه بیزینس‌های کوچیکی که شما الان دارید باشن و هنرمندا <متصفح> کسایی هستن که افراد خلاقت دوست دارن که مدام تپه تصویر بکشن تو ذهن خودشون آدم‌هایی هستن که بسیار تخیل میکنن و یه مدت هم زمان میدن این کارشون تا به عمل برسه یعنی یه مدت زمانی و برای همین عملییرا نیستن واقع‌گرا نیستن در واقع در تضاد با واقع‌گرا هستن این در واقع تیپ شخصیتی رو نگاه کنید که شغلای مناسبشون داره میگه میگه خیلی خوب حالا فکر کنید که یکی از این دوست ها بره تو سونتگره ها بشین چه اتفاقی میفته؟ خیلی دیگه هنر کنید کارشو با کیفیت انجام بیده چون کارشو دوست نداره رأس ساعت چه؟ میخواد بری از صبح بای باید باید متوجه هستیم؟ که سنخیتی نداره برای همین خواهش میکنیم آقای کازمی سعی بکنیم نیروهامون رو جاهایی قرار بدیم که متناسب با شخصیتشونه آدم ها رو که داریم استخدام کنیم آدم مخواهیم دوباله ی بازار یا یه دواقه فروشنده یا یه مدیر فروش خوب میگردیم باید بدون چه چیپه شخصیه اگه طرف اومده پد پد پد پد میکنه نمیتونه اصلا با ما تما... تما... تعامل بکنه اگر نمیتونه مذاکره کنه همونجا بهش میگیم که آقا جا یعنکتو به من بفروش تستش بکنید برای این کار مناسب نیست اگر نمیتونه خیلی وقتا مباحث تحلیلی بهش میگی نمیتونه شما رو قانه کنه عطی چجوری میخواد تو مذاکره من قانون کاری که با این مبلغ این قرارداد رو با شما ببندم پس چیکار می‌کنیم برای در واقع ارزیابی نیروهامون استخدام نیروهامون و حتی شخصیت خودمون برای کاری که الان داریم یا در آینده برنامه‌ای که برای خودمون می‌ریزیم بر متناسب با شغل باشه دارید دیگه کم کم خسته میشید خسته نشید بخش‌های ما بسیار بخش‌های جذاب و گیرا و دری و خصل بی‌ناپزیره و هیچ‌چی دوست ندارید از خونه نام‌آب خوره همه رو. در رابطه با نگرش دوستان مطلب خیلی موهد تو نگرش آقا سلطانیا که گفتی من کم روش دارم فکر میکنم اون ارزیابی که حالا گفتیم ما از فرد بیشتر حالا شیعه هم داریم ولی از فرد داریم به صورت محدود یا نمحدود داره میگه که خیلی وقتا ما که فکر میکنیم رفتار باید بکنیم ولی رابطه مستحکمی نداره ایرونیا از اونا اونجوری که فکر امم. می‌دین؟ بله خیلی این تحقیق البته هم من تحقیقو نمی‌دونم کجا ثبت شده ولی یه مقاله در موردش خوندم که یه عده‌ای از این دوستان آمریکایمون در با ایران تحقیق کردن نه ایران چند تا کشور که اصلا بفهمن چه تیپ رو اونی که میگه و با اون چیزی که فکر میکنه با اون چیزی که احساس هارو نمیشه با هم دیگه حس تضاد هست حالت اونم هم همون قدم‌های روانمندی هم هسته دیگه مثلا آدم با این همین تضاد در درون خودش بتونه کلابیا خودش خیلی حرفه برای همین ها میگه نگرش فرد به صورت علمی هم؟ به صورت علمی استورات که بعد در وجود شما خوشی که ماهمون رو که فکر میکنم باز کنم. ولی واقعیتش اینه که خیلی تحقیقات نشون میده که اینطور نیست. مام نیتروم اون که فکر میکنم باز دارد. باز پس بر ما انتظار داشتیم که پاپ مثل یه پاپ دارد. ما انتظار داشتیم که مدیر، مثل مدیر دارد. ما انتظار داشتیم که شامی اینجا خیلی ماشین تمیز، تمیز بعد میریم شماش پشت. آشغالتون میذبیم. رفته بودم دوزگیر ماشین هم عذیت میکرد سه شنبه این ریموتش مجی که پدر من در بوده رفتم این علی رو سرشو ببرم بذارم رو سینهش خلاصه اونجا بودم یه پسر جوانی مثل آقای دور از اون آقای دهخان و مثل آقای دهخان ما سر ملک کرد با علی آقا آشقالاش میکرد. ببخشید اونا چی بود انداخته اونجا؟ انداخته رو اون بوته های مثلا کنار دارو درخت موکرد و فرهنگم معلوم بود حالا بهتون میکنم چه فرهنگی زن جماعت و آدم اگه حساب باید کرد یه جوان که نیمی کنم 25-24 بیشتر بشه اندخوان که اندخوان راه بود برای هستم آشاندف رو برشتم انتخاب بگه یکیسه فاید نایلونی اونجا بود که زبالهاش کنم ولی آقای اونم یه پسر جوانی هست ولی <تصفح> تو سرنالفه بودش تو کار خوشقربی ش من خیلی عذرخواهی می کنم کتامش کنمم ودی باششتعملیه بیتربیت <تصفيق> به سر درگردی <بی> بود <تربیتیون. تصفيق> و خنگگی ولی خواستم اینو بهتون بگم اینکه من تو خونم تو ماشینم خیلی مهمه ماشین اسپور برق میزنه ماشین عک از من ماشین رو برذاست چی بعد کی گه بیرون آشخال رو بر میکنه اینا یه فرهنگه ولی اینه که من نگرشم با رفتاررم اگه باید تطبیق داشتم چ تو خیابونم نمشغال اگه با تطویق داشته باشه، درسته؟ و بحث فرهنگی که منو بی احترامی به من کرد، خبید کنم اصلا یه زن های من که چی بکنم، چی نکنم؟ اصلا خوب بیکنم تا عشقالی روزم چون احتمالا از یه فرهنگ، نه اینکه فقیری باشم، فرهنگ فقیری داشت متعاید یه خانوادهی که تغییر شده بود، بهش گفت بودم زن بی ارزشه، بودرت بی, بی هستن. و حالا فکر کنید که این نیروی خواهد بیا زیلست من کار بکنید خوب تمنیهش، ماشه الله باشه میگرم خوب تمنیه شک نکنید خب، اینا رو هم با هم انجام بدید. فقط یه چیزی به من بگید با این توصیفاتی که گفتیم آقای ربی نخواه نه خب سر کلاس بیدار باش خشمانی نه نه خواب نیست خواب کدومتون شخصیتتون با کارتون تطبیق نداره؟ سمیرا خواهیم فهم باستو بیار جا همه تون؟ مصد من آره ولی شما باید اتفاقا چون تو سند ساختمانی و هر طور شما باید تو خیلی بلونگرا باشید چون نه اینکه کار دلالی باشه ولی یک کار دیگه که با پیمانکارو و با مشتری و با معمار و با کارگر و همه چی بتونه تعامل کنی زبون باز و باشید از اون سوداگرای درجه یک مثلا چجوری با تو کار چجوری به من میفروشین خونه رو به اون مساله؟ حالا وقتی بیات متوسط در دولان چنانی ها پس بناوری کاملا باید برونگرا بشی اگر تو سنتونی گفتم میخوام تغییر بدم حالا طرفی که خاستی بدی، ببین چی رو بیشتر دوست داری که ایدی رو در مایه خوبی هم برای دوست بشی با شخصیتت منو که بگید من دوست دارم به برونگرا نزدیک شم تکنیک ها شروع بدید که به یکی از چیزهایی که میتونه شما رو برونگرا تر بکنه اینه که مهارت های ارتباطیتون رو افزایش بدید بجت تا که ما ساب دادم اونم بگید بعد به بهتون تکنیکال آموزش مهارت های اصلی مهارت های ارتباطی اینو شوخی کردم کتاب های مفهر مقالات مختلف اساسیی که می آن ازشون استفاده برید بحث ارتباطی هم یه داریم اینجا بهتون کمک می‌کنم جونم استاد ما جانم هرچی به سبب بیرون گراتر بوشه با میتونه تو بخش مثلا یعنی فروش و بازاریابی رو بهتر عمل بکنه یعنی بله. بله. بله بله بله اگه کسی میخواد کارهای بازاریابی بکنه کارهای فروش انجام بده باید مهارت‌های ارتباطیش خیلی در سطح بالایی باشه بله میشه خواهش کنم لیوان آبم اگر زحمت دو تا بیارید این نیاز داره آقای ربی و من با هم نیاز داریم حتماً وقت باشه مهارت‌های ارتباطی مهارت‌های های ظاهری، زبان بدن، مباحث مذاکره موفق، اینا رو خیلی خوب باید بدونه تمام اینها برمیگرده به بحث های در واقع ارتباطیش یعنی ارتباطی، اصولا شما وقتی ارتباط برقرار کنی، میگه خب من امروز که میخواهیم سر کلاس چی باید بپوشم؟ اگر ساعت هم اینجاش قلیه رو پس یک انگوشتری دیگه، اگر لاکه هم حالا اومدم مثل من یک اینجاش این تا باشه با اون باشه به ظاهرتون توجه کوچیکو که ارتباط برقرار می‌خوای تاثیرگذار باشی ها میخوام برم در این ممیوعه آموزشی پوشش معقولی داشته باشم در عین ها نرمجامم باشه هم؟ چون خیلی وقت دوستای ما هستن که نرم نیستن من توی یه شرکت مشاورم مدیر صادراتش یه موجه داره آقای کاشانی اینقدر این سرنتپیدی یا آرایش داره این زمانی که می‌خواد عروسی ببین اصلا این نداره ولی اون مناسبه اون روحیت نیست, نیست. لباس که بروش ببین خیلی... همه چیزاش برند سمی را همه لباساش خوبه خیلی عالی ولی باید نرمش کنه موجه در کوتاه اعتدال بده موجه مصمولی از دارتون ما کتاحتر داره این ها ما بردیم ما حتی تو وزادتون رو خارجه میگم برای میکاپیتون باید بدون چی استفاده کنه برای میکاب شما که داریم با یه عرب صحبت کنی باید بدونی چه, پوشش. بای چه پوششی اونا البته میکاب های خیلی قلیز ده بنا باید چه پوششی چه نوع آرایشی با یه فرانسوی میخوای بری همینطور میخوایی با یه انگلیسی تبادل نظر کنی من یه مزاکری با اونا داشتم برای تدریس که برای مجموعه خودم میخواستم سیاستن آقای کاشون و من همش آموختم در اون دوره کوتاه فقط از اینا آموختم شما خیلی دختر بی سیاستم یکم چون روکم کا دست خودم میدم حالا هر که یکم دانشم کم دانشم هستش پدکستر کردم اعتداله ولی همیشه چون روگویی رو دوست دارم هم روکم و خب خیلی وقت خوشایند آدمو نیست بهشون برنکوره ناراحت میشن سیاست واقعا با سیاستن بله خاصه چیه انگلیساس؟ تمامشون اونجوریه بگوه شکرت هایی که تمام شون مدیره ها شون انگلیسی هنگاه نکنی با ادم که برای شون پاکن و هنگل وای خیلی بگن چی؟ مراد چی میگن؟ بفرمین من بلدیم که اصطلاحات خیلی شد بگیم میگن که مهمترین سیاست صداقت ببینیم صداقت آنچه را که راست است جور دیگه هم باشد آنچه که راست است خوبه که بگیم شاید آها هر راست را نشاید خیلی جوون بودم آقای کاظمی رفتم دستم قیدش شد دستم رو داشتم جا گفت خیلی جوون بودام خب نه نه خیلی جوونی ها خیلی جوون‌تر بودم رفتم گفتم دست دستم داشتم دختر خانم خیلی زیبایی منم گفتم من دست شما شما سن رو من خیلی از شما خوشم میاد گفتم مثلا شما خوشم نمیان دستم خلاصم اومدم بیرون 17 سالم بعد تو سن فکر کنم تو دهه دحس، اول دهه 30 یه تقریبا تو خردوش اتفاقاتی افتاد خود ما یه نیروی میخواستیم بعد مجیدیه تصمیم گرفت یه خانم رو بعنوان منشی بدنش به من بعد خانم بعد از که بهش گفته بودم با بری با فلانی کار بکنی گفتم من خیلی خوب کار کنم بعد مدیر جون می‌خوره می شهر مادر دختر خوبی، جذابی همه دوست داشتن همه عاشقش چرا من می‌شم چه آره خود اصلا نیا نمیده. اینا من فیک منو دوست نداره. بعد ترجیح نمیدم جای کار برم مدیرم من دوست داشته باشم خلاصه میگزه رو من میگه خب چی میشه؟ از هی معاونت رو میگه چه خبره؟ وضعیت کار ما چی میشه؟ در دفتر ما اون خلاصه میگن که اینجوری شده. میมา میگم من بعد خب توجهش چی بود؟ میگم گفتن که شما دوستشون نداری. من رفتم محمد من پس من دخترم ماهي دختر دوقطای کردم و خلصه یه فکر بگم شب همون زمین ها خود آقای <تصفيق> یادم افتاد که آهای یه 2000 سال پیش یه همچه اتفاقی افتاده بود بعد درمته رفتم و بعد درمته به معاملتی می سنگیدم گفتم که یه آدم دیگری رو بفرستید اون اصلا نفرستید ولی بل خودم هم به اون آدم صحبت کردم بعد گفتم فیلانی چی شد؟ اصلا نگفتم که یادم میاد که یه روزی یه همچین اتفاقی افتاده بود گردم پوستی چرا اینجوری شد اینجوری شد به من اینجوری هم گفت قره پرنه میگیده چه من اولی که مردم سازمان و تو اونجا دیدم اونا گفت های فرس میگو خدا ها زدم اون را دیگه تازم که اون بگه که دلیل چون بودم شاید دلائل دیگری هم داشته باشه بعد هم ازش از خواهی کردم بودم ببین بله صد درصد من اون لحظه که این رو به شما گفتم چون دختر تمام منطق نبودم و ولی من چون دوست داشتم و صداقت داشتم میگوردم تو یک کار اومدی مثلا اصلا اسمتون میگور سرم ما قیفت اصلا شما خوشم یا آقا من چی کنم نه با شما حرف نه میشناستم نه براورده اصلا من خیلی صادقانه به تو گفتم مجیزه تو نگفتم در دراز مدت خیلی بدلاقه علاقه شون در این حال این نظر با هم کردیم ولی خب این روگویه آقای سلطانیان این صداقت نیست. نوای گویشه کجا بکی بگیم در چه شهر در چه موقعیتی گفتم کیسو براتون بگم که میتونه چه در واقع تاثیراتی داشته باشه ببین تو سیاست جان اونم تو سیاست نه مسئله این بود که اصلا لزومی نداشت من میتونستم بدون که بهشون حرفی بزن سمی رو چیکار کنم بهش که من تشکر نه اون دروغ میشد نه نمی گرام بهتره خودم نهایتش یا بگم متشکرم یا اصلا حرف نظرم خیلی لبخند بزن این نلبخنده بهتر جواب میده یعنی میدونی که هیچ چیزی اضافه کنم برای همین میخواام میگم که تو اون سن چون خیلی بدم به گفت بودن صداقت و خم اعتقادشا خیلی سریع داخلم بود رد بودم و خیلی جدی بودم بعدم ممنتدل شدم انطاف پیدا کردمه شخصیتی، بسیار آدم جدی بودم. اون واقعا اصلا نامدوب مطمئن باشید با اینکه برختم ذراعایی کردم. با این که همیشه رابطه خوبی با هم این همیشه این گوشه ذهنشون میمونه برای همه مدیران عزیزم در هر مجموعی که وارد میشید با نیروهاتون یادتون باشه چقدر با ظرافت و با برخورد کنید چای دلعفیجوش نشه از هیچ چی پاک نمیشه اوکی اینا آخرین مباحث مون آخه چجوری میتونید پاک این خیلی موقع باید بیدید. خیلی موقع راحت چی بگید آقا یه پیشاپیش بذارین. خب، اجازه بدید که در مورد این موضوع اون زمین سوم جنسه بعد صحبت کنیم. من مواحث آخرم رو بگم. در رابطه با پس گفتیم که فرد یا یه نگرشی داره که این نگرش به صورت علمی باید با رفتارش تطبیق, تطبیق بده. ولی رابطه مستقیمی؟ نه، نداره. آقای کاظمی عزیزم، بحث شخصیت رو کردیم. چه مباهسی رو تو شخصیت گفتیم؟ چه مباحثی رو در رابطه با شخصیت گفتیم؟ دو شخصیت دو یه تست انجام دادیم تست چی بود؟ برونگرا یه سری درماده ویژگی های شخصیت صحبت کردیم گفتیم آدم ها گرایش به دارن با وجدان باشن آدم های پویایی باشن، پر باشند باشن آدم هایی باشن که عبواس مباحث آتفی آدم هایی با صحباتی باشن خشمشون رو به موقع کنترل کنن شادیشون رو به موقع کنترل کنن چون حیجانات میتونه هم منفی باشه هم مثبت باشه دیگه درسته و بعد در رابطه با دیگه چیش صحبت کردیم تناسب بین شخصیت و شغل صحبت کردیم گفتیم که شما متناسب با شغلتون هستید شما به سمت بونگران هستید و از مدیرانی هستید که تو سرنهت تولید صورید و پس برنابراین گفتید بله من خودم دارم میبینم به عنوان یه مدیر گرایش دارم به سمت چی؟ برونگرا. به سمت برونگرا خستتون کردم آقای کازمی؟ خیبا آخرین در رابطه با نگرش شخصیت و ادراکه ادراک دوستان اینه که شما یه اواملی روی درکتون از محی تحصیل میذاره اینکه شما چه تیپ شخصیتی دارید، چه جوری فکر می‌کنید، چه جوری ارزیابی می‌کنید، چه دانشی داشتید، چه تجربی در زندگی کاری و شخصی داشتید، چه انتظاراتی از خودت و آیندت دارید. درسته؟ میشه واسه همین مثال بله. بله، با ذکر این مساج گیر یه یکس بالا رو ببینید. این آقای جوان خوشتیپی که اینجا هست و از مدیران زمان آقای احمدی نجاد هم هست خیلی پسر مهندسی صنایه هم خونده بود بسیار پسر توامن بود به عقص سنش که مثلا سی سابه خیلی با تجربه بود که مدیران بود که به اون مدت چهار سال در یک مجموعه کار میکرد خب با توجه به این خصوصیات شخصی که افلا که آدم مذهبی بود دو اینکه مهندسی صنایه خونده بود میشون با توجه به درکی که از کار و اون سازمان داشت حالا کار چی بود؟ کار بحث های مدیریتی بود یعنی مشاوره مدیریت دادن به افرادای مختلف به سازمان مختلف درسته؟ اومدید یه سازمان مشاوره نیاز به تعامل داره آدمهایی که با سهادن و دانشمهورن، دانشگر هستن آدم هایی که باید روشون حساب کنه خب قبلا تو تمن اجتماعی کار کرد با توجه به درکی که از سازمان داشت توامندی های خودش خب، یه زن مذهبی بود اونجایی که اومده بود، یه مقدار تدازید خانم بودن با گرایش مختلف یه سه سمت چی بودن؟ راستی چپی بودن، بعد همه را میتونست با خودش مچ بکنه بعد در این حال تحصیلات دانشگاهی داشت، مهندسی داشت، احساس کرده بود مهندسی داره ولی چون دوره مدیری از سیستم بحره ولی خود و بودای مدیریتیش رو باید تقویت کنه اومد از مدیران ملای اسبخ استفاده کرد اومد از مدیران اسبخ اون واحد استفاده کرد دعوتشون که دو داد، حتی به کار گرفتش و قرارداد مشاوره باشون بست چیکار کرد؟ در از اونها هم استفاده کرد پس خودش یه درکی از ماهیت داشت یه دانشی داشت یه تجارب قبلی داشت و بعد اومد با توجه به انتظاراتی از خودش داشت میخواست مدیر قابلی باشه بتونه پروژه های بزرگ بگیره و با کیفیت انجام ده رابطهش با این جماعت جدید که شکلی با خود استانفیتی نه مذهبی نه سیاسی نداشتن چه کار کنه پس بنابراین روی عوامل مختلفی که شما میبینید روی آدم اینکه چی فکر میکرده چه تیپ شخصیتیش هم برشون میانه بود یعنی هم در مورده گرایشش بیشتر به برونگره بود مثل آقای ابراهیم اینه هم اینه مثلا شاید سی بود و اینکه انگیزش چی بود؟ پسر جوانی بود بخواست رزومه خوبی از خودش بسازه و علاقه مندیش به کارش اینکه کار رو دوست داشت هم؟, هم داشت و اینکه تجارب گذشته‌ش هم آبور، دانش گذشته‌ش هم آبور، وارد این سیستم که چیکار کرد؟ یه کار با ارزشی از خودش پون چار سال به گذاشت. و چرا بهش کادو در واقع بعد از اینکه خواست محیط رو ترک کنه بهش یه فرش کار دادن؟ اولن دی که آدم ملیه مویبراوهنش خیلی زحمت بکشه بودم پس یه فرشیه صنعت سر دستیم دوباره چون مذهبیه اگر که تابلو فرشیان بیم حال نمیکنه که شرایع تاب و فرشه بری کادو بهش بدی. پس برنابرین در واقع این تونست چهکار میکنه حتی دیگران هم اومدن با توجه به این مباحث به اون کادایی رو انتیب به مبارکش اون هو بود داره میگن چغ کنم دادن. شما هم دقیقا همین کار میکنین شما میگی من تو صنعت قنادی بودم خودم مغازه داشتم بعدا کم کم اومدم چیکار کردم؟ کارگاه زدم یعنی یه تجربه از گذشته داشتی یه دانشی داشتی انگیزه می‌شون که بیزونست تو بهتر کنید توصیبی، پول بیشتر دریم در این حال هم، یالت هم میخواد که رزومه خودت خوب خود باشید یعنی قنادی آقای روی معروف باشه که قرنادی با کیفیت محصولاتش، محصولات خوشمزه کیفیت خیلی خوبی داره خانواده ها میتونه با قیمت مناسب و خانواده متوسط مثال میزم، برای اون بازار هدفت هم مثلا مشتریان قشر متوسط، طبقه متوسطه چیکار کنی؟ در واقع عرضه بکنی پس تمام این نسبت به درکت، به اون بیزینس هست، کرده؟ کمک کرده جو تئوری های مختلفی داریم. مهمتره تئوری های ادراکی آقای سلطانیان آقا سبزو بردم تئوری اسناد، تئوری غالبی هردیشیدن و اثر حالهی اثر حالهی جز معروفترین نشونه من به خاطر زیغ وقت اون دوتا تئوری رو برایتون مطرح نکردم ولی میتونیم که بعد از کلاس ببینیم براتون توضیح بدم اثر حالهی چی میگه؟ میگه آقا جان من یه ارزوی از شما سریع بکنم هوش شمه تجاری داری ارتباطاتت هم خوبه میگه همین آقای کاشانی بیزینسمن خوبیه با دو سه تا ویژگی دارم تقمیمش میدم به یه چیز کل هم؟ یه بیزینسمن خوبیه یه مثالی بودم در مورد استاد چون خودم هم تعدیمیس میکنم شما یه استادی دارید یه سطح دانشی داره یه اطلاعاتی به شما داره میده، یه مطالبی رو براتون تهیه کرده، کتاخای رو معرفی کرده، بیان خیلی خوبی داره. اینو دارید. ولی فرض بدیم من همه این کارا رو بکنم. اصلاً که بی اومدم با شما اینجوری، همینجا میام. هم بیشترم جو. اصلا خیلی هم جدی، همتونم آقای کازمی، آقای کاشانی، خانم زینوزی، اثر نمی‌ذاره. و تو نمی‌ذاشت. حالا که بعدها می‌خوایم بکنیم. میگه که این فیژیوی های هیه روی و که همه جا توان انرژی داره میزن این حاله انرژی داره، همینجا داره چیمیا دور مغناطسید داره موج میده این امکان ده ده. اون این لحظه که از درداش میرفت بیرون به یه کلی رسیده این مدرس فلانی ها حالا کنم چی ما داره یعنی با دو تا ویژگی یه ارزاویه کلی و بهش بینن چی؟ اثر سر حاله آقای نکاشم این نخواه شد موضوعاتمون شما خالیمی یادم خالی نور می افتیم خالیم خالیمی یادم خالیم حاله زمان توبیم یکی کشی زن این که دفعه رو چیز نیکنم این سنهایی ها شما نمیدیم ما درمیده چیز درمان ما هم یادم راشاییم نه دیگه ما ما چون یادم بایدام چون سنایش زیاده ما دهیت چیل بله دهه این چرا من حالا چون خواهر برده بزرگ از خودم داشتم خیلی ده های سی و خب الان ما علامت سوال گذاشتیم چون مطمئنن قسم میخورم تو این کلاس امروز هیچ چیزایی از دارید میرید بیرون براتون علامت سوال شده یعنی دنبال این هستی که چه من باشم چه نباشم بلاخره تون بخصوی رفتار سازمانی بینید یه ذله یه کوچولو یه مقاله بخونید، یه تنهایی بکنید. ها درست یعنی یه جرقه‌ای زده آقای روی؟ باشی. زده؟ جرقه‌زده؟ شده باشه. ان کتابی که معرفی کردید من ندیدم. کدوم کتاب؟ من توی ایننده. توی درسنامه مال آقای رابینز خدوستان مشهوره حتی چند هم هست اگر که دارید بخوزن احتمال دارید دورهای دانشگاهی توی دانشگاهی توی ولی یه رفتار سازمانی بین و آقای عبزلی از دانشگاه اسپانه ها ترات میکرده ترجمش بعد نیست میتونم یه می دهستان خوبه اون رو اگر دارید اتفاقا خیلی مزخرفی بین اون دارید اون کتاب تا به تو کامنت میگرده. یعنی که با خودم توی شرکتی چند مثلا اریدی که مثلا کره ای هست، استرالیایی هست، ایتالیایی هست، تو ایران ایرانم خیلی از شرکت های بین المللی هستن که چند گروه داره کارمیکنن کارم. مثلا چینی توش کار میکنه، چه میدونم آمریکایی یا انگلیسی داره کار میکنه، آفریقایی داره، آره آفریقایی ها توش کار میکنه اگر اونا باشه اونا میتونه یک کاربوردی هم برای خود شما داشته باشه توی رفتار سازمانی توی مباحث من به انسانیم دو تا کتاب بهتون معرفی کردم که اونها مرجعه های نیست اگر در همین حد میخواین آشنا بشین با مبانی پاورپولیت های من مهم تایین مطالب رو برکون انشالله این جلسه و جلس آتی ولی اگر که نکه یک کتابش رو به حد مرجع داشته دوستانی که نبودن گفتم هفته آتی بعد از ساعت یک یک فیلم میخوام بذارم که مرتبط با مبحثتونه و جلسه آخر اگر تمایل داشتین یه نفرتون اگر هیچکی نمونه که بعد دیوار نمیتونم بزنم خونه خودم هم دیدم فیلما رو ولی یه نفرم بمونه من میمونم شما که فیلم ها بین 25 تا 30 دقیقه بیشتر نیست هفته دیگه هفته دیگه و هفته آخر یکی درو در با مباحث رفتار یکم در تو مباحث مدیریت منابع انسان. اونم به جهتی که همیشه اعتقاد دارم تصویر پاورپوینت غیر از گوییشا که حالا خود فرد داره تستا فیلم هم میتونه یه اثر مثبتی داشته باشه و با تو ذهنتون بیشتر بمونه چون بالاخره شما مدام های مختلف میرید، دانشگاه های مختلف درست مختلفی مختلف تو ام بی ای دارید برای همه امکان داره خیلی مطالب رو من امکان یک گوشی ذهنتون فیلمه بشینه که اه, کمک و تصدیل گذار باشه برای میتونید تشریف ببردید خیلی هم برای خودتون یه دست بذارید که همهای موجه هست دو شخصی و منو رو تعمل کردید بسیار باری بود بخریش